می رسیم به سوره مبارکه حامیم از سجده این دومین دو حامیم از حوامیم سبعه و از نظر ترتیب بعد از اون حامیم این نازل شد حامیم مؤمن سوره ای هست که آن حضرت نازل شد و این سوره ای هست که بر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل شد و ربط این سوره را با سوره گذشته خدمت شما عرض می کنم در سوره حامین مدعا این بود که فدع الله مخلصین له الدين مدعای همه حوامیم همینه هر هفت حامیم یک موضوع داشت اما در هر یکی از این حوامیم سبعه یک شبهه یک سوالی یک اشکالی پاسخ داده میشه جواب داده میشه خب اینجا چه اشکالی هست تو حامیم مومن تو حامیم از سجده این اشکال هست که شما که گفتید در حاجات و مشکلات ما فوق الاسباب فقط الله را بخانید فقط او را فریاد بزنید اما ما گاهی این اشکال پیش میاد که گاهی می بینیم شخصی گرفتار شده و در این گرفتاریش غیر الله رمی خانت از غیر خدا کمک می خواهد و برای خوشنودی غیر خدا نظر و نیاز میده گوسفند میکشد. می بینی مشکلش حل میشه خیلی ها هستن که مشکلشون حل میشه یا گاهی جنین میشه که شخصی در خواب می بیند خواب می بیند که از اون خوابش مشخص میشه اون عمل شرکی که در انجام میده اون عملش مورد تایید است مثلا تو خوابش بزرگی میاد میگه همیشه از ما بخواهید از ما کمک بخواهید گاهی در بیداری هم بعضی ها میگوین ما دیدیم فردی آمل لباس سفید داشت گفت که شما این کار را بکنید گاهی در خواب گاهی در بیداری میبیند که مثلا میگوید در فلان مشکل در صدا زدن ما کوتاهی کردی در نظر نیاز ما کوتاهی کردی در ارز کنم عبادت ما کوتاهی کردیم مشکلش حل میشه بالاخره بس اینکه ما غیر خدا را صدا میزنیم این ما در تایید این عمل کرده خودمون را هم در خواب میبینیم هم در بیداری میبینیم در بیداری گاهی مشکل ما حل میشه در خواب میبینیم که همون روشی که ما داریم اون تایید میشه پس چطور شما میگید که فقط خدا را فریاد بزنید. اینا داشته باشید پاسخی که خداوند عزّ و جل در این سوره بیان می‌فرماید، اون را ارز می‌کنم ولی اینکه شبهات برای اهل شرک پیش می‌آید واقعاً هم در خواب هم در بیداری. گاهی خداوند مشکلشون را حل می‌کند. شما گاهی به پای سخنان مسیحیان بشینید اونا هم تعریف می کنند از کرامات ایسا مسیح میگویند که فلان فرد در, در چنین مشکلی گرفتار شد ایسا مسیح را صدا زد مریم را صدا زد روح القدس را صدا زد به صورت موجز آسای مشکلش حل شد چنین شد و چنان شد هر کسی که معتقد از سختی که گوش می کند بیشتر همون مسیح را انتخاب می کند از ما مسلمانان بعضی که خرافات هستن و سرکارشون با صدا و فریاد غیر الله هست هم, هم همین میگن فلانی فلان جا رفت حاجتش برآورده و فلانی فلان شخص را در بیداری دید در خواب دید این نه تنها در میان مسلمانان در میان همه مذاهب شما وقتی برید از این نوع برخوردها شما خواهید دید شما برید داستان های هندوها را بخونید داستان های بودایی ها رو بخونید همه از این نوع داستان ها داره. الان بعضیشون دروغه اکثریشون دروغه ولی راست هم هست یه سریع چیزهای اونا میبینند چه در خواب چه در بیداری این علتش چیه خداوند عز و جل در این سوره مبارکه جواب میده و قیضنا لهم قرانا. یعنی شیاطینی قران نا جمع قرین است قرین به معنی همراه همراه مرا شیطان است قال قرینه ربنا ما اتغیته در سوره قاف می خانید همیش شیطان روز قیامت میگه خدایا خدای من این گمراه نکردم ربنا ما اتغیته من این گمراه نکردم ولیکن کان فی ضلال بید خودش تو گمراهی بود خداوند می فرماید اینهایی که این گونه فریب میخورند این شیاطین استم برای این افراد مسلطت. در خواب و در بیداری در خواب و در بیداری برای این افراد چنین چیزهایی چینی حوادث پیش میاد شما باید به دلائل نگاه کنید ببین دلائل قرآنی دلائل منطقی هستن قانع کننده هستند. شما نباید چیزی که القاءات از سوی شیاطین هستن از سوی جنات هستند از سوی دشمنان شما شیاطین دشمنان انسان ها هستند شیطان سوگند یاد کرده که به تنهایی به جهنم نروم با خودم جمعی را بیبرم لذا شما نباید به القاءات اینها توجه بکنید شما پیام خدا را کلام خدا را دلائل قرآن را ببینید فستقیمو علیه واستغفروه و ویل للمشرکین بس مستقیم بسوی خدا متوجه باشید به سوی غیر الله متوجه نشو واستغفروه کوتاهی هایی که در گذشته کردی از اونها معذرت خواهی بکن و ویل للمشرکین هلاکت برای مشرکینی که بر نمیگردند لذا این شبه در سوره مبارکه حامیم سجده جواب داده میشه پاسخ داده میشه در ابتدای این سوره خلاصه سوره را عظ می کنم در ابتدای این سوره مثل سوره گذشته تمهید مع ترغیب است این تمهید مع ترغیب یعنی یک مقدمه که دون ترغیب به سوی قرآن است وقتی که خداوند تشویق می فرماید ما را به سوی قرآن مقدمتا معنیش اینه که آیات معبد را خوب گوش کن گوش هات را باز کن ابتدای سوره تمهید همرا با ترغیب است چار دلیل خداوند ذکر میفرماید على سبیل الترقی بعد از هر تر دلیل اونجا بعد از هر دلیل سمره و نتیجه بود اینجا بعد از هر دلیل تخویف دنیاوی یا اخروی است یعنی بعد از هر دلیل خداوند بیم میده ما می ترسونه که ای مخاطب اگر قانع نشودی عذاب برات هست چه در دنیا چه در اخرا پس بعد از هر دلیلی تخویف دنیاوی یا اخراوی است و چهار بار خداوند در این سوره زجر و سرزنش فرموده زجر با نقل قول است و الله تعالی در میان این زجر و سرزنش طریق تبلیغ را هم برای پیغمبر بیان میفرماید و برای هر دعوتگر توحید که شما وقتی که اینها را میخواهید دعوت بدهید به چه صورت شما باید دعوت بدهید روش دعوتتون چی هست و بعد سه شبهه ذکر میشه سوی مشرکین و اون شبهات جواب داده میشه یک دلیل وحی هست بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیلم من الرحمن الرحیم این تمهید مع ترغیب است خداوند که آغاز میفرمه بیشتر با حروف مقطعات وقتی سوره را آغاز میفرمه کتابش رو تعریف میکند این کتاب نازل شده از جانب اون ذاتی که خیلی بخشنده و خیلی مهربان است. یعنی ذاتی هست که آماده بخشش شما هست که شما را ببخشد و آماده هست شما را بر شما مهربانی کند به شرط اینکه شما حرف شنوی داشته باشید و از تنزیلون کیفیت نزول بود من الرحمن الرحیم بیان منزل یعنی این مکتوب این آین نامه این کتابچه یا این حکم نامه از سوی ذاتی هست که خیلی بخشاینده و رحیم بزرگ است کتاب الفصلت آیاتو این بیان منزل است منظور کدوم تنزیل است یعنی این کتابی که فصلت آیاتو تفصیل به معنی واضح بیان شده روشن بیان شده فصلت آیاتو آیات شیه یعنی روشن است واضح است ببین قرآن مجید کتاب ای نیست اینطور نیست که فقط فیلسوفینا بفهمه فقط کسی که علامات الده باشه بفهمه نه هر کسی قرآن را میفهمد بالخصوص درست وقتی که القا بشه و به زبان خود قرآن وقتی که توضیح داده بشه هر کسی میفهمد پیرزن و پیرمردی که سواد نداره هم میفهمد خدایم چی گفته لذا کتاب فصلت آیاتو کتابی هست که با وضوح و با روشنی بیان شده آیاتش قرآن عربی در حالی که این خوانده میشه به زبان عربی بعضی میگن این حال است بعضی میگن نه آمیلش مقدره امده قرآن من تعریف میکنم قرآنی را که به زبان عربی هست اما این قرآن برای چه کسانی هست؟ لقوم یعلمون برای قومی که میدانند ببین یاعلمون به من علم نیست یعنی قرآن برای کس قومی هست که اهل علم و اهل دانش باشند هرکی بیسواد بود نمیداند نه به این معنی نیست شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله می فرمد یعلمون به معنی یونیبون هست یعلمون به معنی چی هست یونیبون هست یعنی هر کسی که علم داشته باشد هر کسی فهم و درک داشته باشد او زد نمی کند او اناد علم درست همونه که را به تعصب و نکند اینهایی که علم دارن دانش دارن تعصب خشک دارن اینا در واقع عالم نیستند علم صحیح و علم مفید اون علمی هست که چی در وجود انسان تعصب و اناد نباشد لذا به این خاطر ایشون ترجمه کردن یعلمون را به حاصل مراد انابت است. این قرآن برای قومی هست که انها انابت دارند اونها درک دارند بشیرم و نذیرم در حالی که خوشخبری دهنده مجد دهنده هست و انذار کننده هست می ترساند بشارت می ده کسانی را که آنها تسلیم می شوند در مقابل قرآن و انذار برای کسانی که آنها تسلیم نمی شوند فاعرض اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون این سرزنشش این توبیخ است اکثر مخاطبین قرآن اعراض کردند، اکثر مردم ایمان نیاوردند، فهم لا يؤمنون پس فهم لا يسمعون اونا به دلیل اعراض گوش نمی کنند قرآن را سماع نمی کنند نمی قرآن را سعی می کنند که اصلا گوش نکنند ما در همین سوره می که بزرگانشون و الرؤساءشون به پیروان خودشون میگفت: اصلا گوش نکنید. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کفر گفته این قرآن را گوش نکنید. بنابر این سعی میکردند گوش نکنند. اگر گوش میکردند و میشنیدند. چه بحانه ای و وقال قلوبنا في أكنت میگفتند که دلهای ما در غلاف است. مکنون یه چیزی رو میگن که تو غلاف چی باشد پوشیده شده باشد مخفی شده باشد میگفتن دل ما تو غلاف است یعنی هرچی شما بگوید قلب ما به دل ما نمیرسد به ما ما نمیخواییم گوش کنیم نمیخواییم بفهمیم لذا برای ما قابل فهم نیست قلوبنا فی اکن دل های ما در غلافست مما تدعونا الی از اون چیزی که تمارا فرامی خانه بسوئی آن رسول اللہ چی چیزی فرامی خاند؟ توحید فی العبادت تو میگی فقط یک خدا ما نمی فهمیم اجعل الالیهت اله واحده ای همه اله را یک اله قرار بدیم؟ نه برای ما ممکن نیست بس میگفتند دل های ما در غلاف است مم ما تدعونا الی از اون چیزی که تو ما را بسوي افرا میخانی و في آذاننا وقر و در گوش های ما بار هست گوش ما یعنی پر باره هیچ نمي نمی. این دوتا تعبیر تعبیر سوم و من بیننا و بينك حجاب بین ما و بین تو پرده هست حائل هست حجاب است لذا ما نمیتونیم ما و شما در یک مسیر قرار بگیریم به تعبیر محلی های ما شما اون ورجو ما این ورجو فعمل ایننا عاملون تو بجای خودت عمل بکن به همون روش خودت ایننا عاملون ما عمل میکنیم به همون روش خودمون به روش خودمون عمل میکنیم بس ببینید سه چیز به رسول الله اونها گفتند که در واقع دو چیز میشه یکی این که دلهای ما مخفی هست در غلاف هست در پرده هست هرچی تو بگی به فهم ما نمیاد ما نمیفهمیم یعنی قبول نداریم دوم گوش ما پر بار هست هرچی بگی نمیشنویم سوم اصلا روش ما با روش تو فرق دارد بین ما و بین تو حائل وجود دارد حجاب وجود دارد پس با کار ما کاری داشته نباش خودت هرچی میکنی بکن فعمل نه عاملون خداوند جواب می‌دهد قل انما انا بشر مثلكم خداوند میفرماید ای به آنان بگو جزی نیست که من بشری هستم مثل شما این جواب چی هست این جواب این آخری هست که گفتند بی من بین نا و بین که حجاب چرا بین ما باید پرده باشه مگر من غیر از جنس شما هستم من بشری هستم مثل شما اللہ ما علوسی نوشته ای لست و ملكا ولا جنيا لا يمكنكم التلقي منهم. من فرشته نيستم جن هم نيستم كي از او در چيزي ممكن نباشه من مثل شما انسان هستم چرا بين من وبين شما هاي بايد باشه بس این جواب امه و هو رد لقولهم بيننا وبينك حجاب خب يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد بسوء من وحي شده كمعبود شما معبود يقانه است إن دليل وحي هم يوحى إلي إن جواب چه است جواب إنك في أكنة مما تدعون إلي وفي آذاننا وقت شما كم يقولون گوش ما نمی شنود دل ما نمی فهمد مگه من حرفی زدم که قابل درک نباشه قابل فهم نباشه یا خلاف عقل سلیم من حق حرفی زدم نه من یه چیزی میگویم که هر عقلی میفهمد هر کسی عقل سلیم داشته باشه درک میکنه من چیز خلاف, خلاف معقول نگفتم چی گفتم انما اله کم الهون واحد معبود شما معبود یگانه هست چرا دیگران را پرستش می کنید ببینید یعنی شما را به چنا مسئله دعوت نمی دهم که از عقل فراتر باشد بلکه من شما را دعوت می دهم به توحید الهی که با دلائل عقل و نقل ثابت شده یعنی چیزی معقول من در شما میگم علامه آلوسی نوشته ای لا ادعوکم الى ما تنبو عنه العقول من شما را فرانه خواندم به چیزی که عقول از تنفر داشته باشد و انما ادعوکم الى, الى التوحید الذي دلت عليه دلائل العقل من شما را سوی توحیدی دعوت می دهم که دلائل مختلف عقلی بر اثبات توحید دلالت می کند و شهدت له شواهد سمع و شواهدی که قابل سمع و قابل گوش کردن هستند و قابل دیدن هستند شهادت می ده بر اینکه خدا یکی هست و هازا جواب عن قولهم فی قلوبنا اکنه این جواب چی هست؟ اینکه گفتن در دل ما؟ غلاف است دل ما در غلاف است پس خداوند جواب داد این یا وگوی های را جوابش همینه که ای رسول من اعلام بفرما انما انا بشر مثلکم من هم بشری هستم مثل شما اما تفاوت و فرق من با شما اینه که یو بسوی من وحی می شود پس چرا نفهمید مگر من موجود دیگه هستم که نمیفهمی زبانی مرا و دیگه این که مطلبی که من بیان میکنم چرا برای شما قابل درک نیست این مطلب مطلب ای هست انما الهکم الهون واحد جز این نیست که معبود شما معبود یگانه هست معبودی هست که هیچ شریک ندارد بعد از این که دعوت را بیان فرمودند حال طریق فوز و طریق نجات را بیان می فرمائند الله می فرمائند اگر می خواهد نجات بیابید فائز بشید کامیاب بشید یک و الی یعنی مستقیم راست سوی خدا بگردید فستقیمو الی یعنی چه مفسرین نوشتا ای اخ لسو له تون را خالص برای خدا انجام بدید برای غیر خدا انجام ندهید دو و استغفروهو و از الله معذرت خواهی بکنید مغفرت بتلبید برای شرکی که در گزشتی انجام دادید یعنی از شرکتون توبه بکنید از خدا معذرت خواهی بکنید در این صورت کامیاب میشه نجات میابید و تخویف اخروی اینجا بیان میشه اگر بر نگشتید و ویلون للمشرکین حلاکت و تباهی و بربادی برای مشرکین بعضی میگن ویل معنیش حلاکت است از نظر لغا بعضی میگن ویل نام یک وادی هست در جهنم ولی خب معنی اول قویده است. حلاکت برای مشرکان مشرکان کیا هستن الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ انا های که زکاة نمیده هم ببید. این سوره سوره مکی هست در مکه نازل شده در مکه زکات که فرض نشده بود مراد از این زکات زکات مال نیست مراد از این زکات زکات نفس است. متوجه شدید زکات بمعنی پاکی شما که زکات مالتون را میدید معنیش اینی که مالتون را پاک میکنید زکات نفس اینه که نفس خودت را خودت را پاک کن از چی پاک کن از شرک پاک کن به همین خاطر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما این را تفسیر میکنه الذين لا یاتون الزکات ای لا یقولون لا اله الا الله متوجه شدید زکات چندین جا به معنی پاکی نفس آمده قد افلح من تزکى خداوند نفس را که ذکر می فرماید و نفس و ما سواها قد افلح من زکها خداوند که نفس را برابر آفرید انسان موفق و کامیاب اون کسی کی ان کس که این نفس را پاک بکوند از چه پاک بکند از شرک و آلودگی شرک پس قد افلح من زکها آمده قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربیه فصل پس قد افلح من تذکه کسی که نفس بکند یعنی نفس خودش را از آلودگی ها پاک بکند همه گناهان آلودگی هستند اما در رأس گناهان چی گناهی است شرک قد افلح من ذکه ها و قد خواب من در انسان خائب و خاسر انسان ناکام و نامراد کیه من دستا هم اون کسی که این نفس را چی می کند آلوده می کند دست می این چیز رو تو خاک بمال یعنی نفس خودش را با شرک کسیف می کند پس این پاکی بمانه چی هست؟ پاکی مال نیست پاکی نفس و جان هست پس مشرکین کی هستند؟ اینی که زکات مال نمیده، او مشرک نیست، او گناهکار است. خدا به کسی مال داده ولی زکات نمیده. بگیم این مشرکه چون خدا گفته وای للله المشرکین اللذین لاایو تو نزکات نه. اینجا سوره مکی هست، اینجا زکات مال هنوز حکمش نازل نشده پس مورد زکات چی هست؟ زکات نفس. ای لا یقولون لا اله الا الله ببین دوتا علامت برای مشرک شما در قرآن زیاد میخانید یک منکر توحید مبدع دو منکر معاد قیامت اینجا ها دوتا ذکر شده الَّذِينَ لا يُعْتُونَ الزکات یعنی منکر توحیدند و هم بالآخرت هم کافرون منکر معادند منکر قیامت هم هستند و آنها نسبت به آخرت چی کافر هستند پس خداوند فرمود بعد از اون دلائل اقلیه این انا ما اله الهو واحد و ایلو للمشرکی این دو صفت مشرک هم منکر یگانگی خدا هست و هم منکر بعث بعد الموت هست قیامت هست اما در مقابل این مشرک کی را داریم؟ موحد را داریم یک تا پرست را داریم موحیت کیه؟ این صفات. اینا لذین آمن و عمل الصالحات همانا آنهایی که آمن ایمان آوردن. این ایمان اشاره به اعتقاد است. یعنی اعتقادشون درسته. با خدا شریک ایمان نمیست شرک نمیسه. ایمانیا نمی شرک نکردن. عمل صالح اشاره بیچیه است به بی اسکنام اصلاح عمل است. اصلاح عقیده و اصلاح عمل. لهم اجر غیر ممنون برای آنان اجری هست غیر ممنون یعنی غیر مقتوع پاداش چنان پاداشی که قط نمیشه پایان نداره همیشه در رحمت و برکات و نعمت های خداوند قرار میگیرن این افراد لهم اجر غیر ممنون حال بعد از اینکه خداوند دو گروه را ذکر فرمود مشرکین مؤمنین اكنون دلیل توحید اقلی دوباره دلیل اقلی بر اثبات توحید عرض کردم تو این سوره چهار تا دلیل است بعد از هر دلیل تخویف یعنی اگر به این دلیل قانع نشودی بترس از عذاب از خدا یا تخویف دنیوی یا اخروی این اولین دلیل هست. قل این انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین؟ به اینها بوگو ای پیامبر آیه شما کفر میکنید. خب اونا خدا را قبول ن قبول داشتند. نسبت به خدا که کفر نمیکردند. کفر اینجا بمعنی شرک است مفسرین نوشتن لتک فرون بلزی یعنی به توحید لزی به وحدانیت اون ذاتی که خلق الارض فی یومین ببینید اگر در پیدایش زمین و آسمان شریک دارد بس در عبادت هم شریک دارد ولی وقتی که در پیدایش زمین و آسمان منفرد و واحد است در عبادت هم بایی چی باشد؟ یکتا باشد اینانکم ای شما شریک می سازید و کفر میکنید به توحید ان ذاتی که خلق الارض فی یومین زمین را آفرید در مقدار دو روز چرا ارز کردم مقدار دو روز چون اون روز دروز نبود مقدار دو روز بود ببین بعد از اینکه زمین و آسمان خلق شدند شب و روز را ما با چی تشخیص میدیم با طلوع و غروب خورشید دیگه اون زمان هنوز خورشید نبود که ببینیم دو روز شدن یا سی روز شدن ولی از نظر مدت زمان به اندازه چی شد مقدار دو روز طول کشید پس زمین را در مقدار دو روز خلق کرد آیا نسبت به اون زد کفر میکنید؟ ببینید گفتم کفر مراد شرک است چون فرمود و تجعلون له اندادا قرار میدهید برای اون ذات شرکا؟ ذالک رب العالمین این ذاتی که زمین را در ظرف دروز آفرید این رب عالمیان است، رب جهانیان هست شما برای او شریک قرار میدهید از جن و از انس و از فرشتگان و از این و از اون؟ ببینید چقدر این ذات قدرت داره در ظرف درو زمین رب آفرید بعد از اون چی کار کرد و جعل فیها رواسی من فوقها قرار داد در آن زمین میخای روی زمین منظور از میخوا کوها کوها را خدای عزواجل روی زمین قرار داد تا زمین محکم بیسته تکان نخورد لرزش داشته باشد خب کوهار که در زمین قرار داد و بارک فیها در این زمین برکات گذاشت ببینید اینقدر این زمین برکت داره ما هرچی میخوریم و مینوشیم از همین زمین هست یا نیست و قدر فیها اقواتها و مقدر که در این زمین اقواتها یعنی خوراکی های آن را زمین خوراکی دارد بل خوراکی دارد برای خودش خوراکی ندارد اقوات اهلها خوراکی های در این زمین قرار داد خوراکی های اهل زمین را قال عکرمه و الزحاق معنا قدر فيها اقواتها ای ارزاق اهلها رزق اهل زمین را وما يصلح لمعاشهم هر چي براي معاش و زندگي اهل زمين لازم هست من التجارات والاشجار والمنافع في كل بلده در هر شهر خب اينها را قرار داد في اربعه ايام در مدت چهار روز در مدت چهار روز ببينيد در گزشته ما خاندیم که زمین را در دو روز قرار داد اگر این بظاهرش کسی از ظاهرش اینطور بفهمد که باز اقوات زمین را در ظرف چهار روز پیدا کرد و اصلاح کرد این میشه شش روز بعد میخوایم، ثم مستوى الى السما آسمان را فقضاهون سبع سماواتی فی يومين آسمان را در ظرف دو روز چقدر میشه؟ هشت روز میشه دیگه دو چار دو میشه هشت روز در حالی که در آیات مختلفی میخانیم شش روز است. خلق السماوات والارده فی ستت ایام به این خاطر این فی اربعت ایام بنویسی با دو روز اول فی اربعت ایام معنی چی هست که با اون دو روز اول چار روز میشه یعنی این را در استلام میگه دحوه دحو الارض والارض بعد ذلك دحاها مخانين این دحو زمین دحو زمین چیه یعنی کوها رو در زمین گذاشتن در زمین ارزاق و اقوات و اشجار و عرصکن به خدمت شما آب و چاه و قنات و ذخایر و معادن و هر چیزی که لازم است این همه رو در ظرف دو روز گذاشته پس دو روز این شدن دو روز پیدایش خود زمین شد این چهار روز دو روزم آسمان ها تغلط میشه 6 روز میشه 6 روز میشه بله وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام در 4 سوا للسايلين برابر برای سائلین البته سواء ستا تركيب داري سواء للسائلين حال از في اربعة ايام در چار روز در حالك برابر بالسائلين سواء للسائلين صفتي اربعة ايام سواء للسائلين خبر براء مبتداء مقدر ايه هو سواء للسائلين خب مراد سائلین چیه دوتا ترکیب دوتا معنی دوتا تفسیر یکی اینکه سائلین سوال کنندگان منظور کسانی که با ایما و اشارات علماء یهود از رسول الله سوال کردند که زمین و آسمان در چه مدتی پیدا شدند؟ وقتی که خدا من این آیه را نازل فرمود فرمود سواء لسائلین یعنی برابر با اون چیزی که در ذهن سائلین هست مطابق با اون چیزی که در علم سائلین یعنی اونایی که سوال میکنند از کتب گذشته دارند یک چیز غیره لذا با اون برابره با اون مطابق این ایام تفاوتی بین ایام قرآن و ایام کتب گذشته نیست بعضی میگن نه سواء للسائلین منظور السائلین محتاجین نیازمندان پس معنی میشه که قدر فیها اقواتها در این زمین خداوند اززوجل ارزاق زمین را خوراکی های زمین را مقدر کرد برابر برای نیازمندن همه ما سائلین هستیم همه ما محتاج هستیم یک روزی غذا نخوری مشکل پیدا می کنیم فسائلین یعنی محتاجین همه این اقوات را خدا برای ما برابر آفرید خوب، دو روز روز شد دو روز پیدایش خود زمین دو روز ان صلاحیت هایی که برای اهل زمین خدا در زمین گذاشت، عام از نسب کوها، عام از مخازن و معادن و آبهای که در زمین خداوند ذخیره کرد، خوراکی‌هایی که برای ما در زمین ذخیره کرد، این شد چهار روز ثم استوا ال السماء. سپس خداوند عزوجل متوجه شدند به سوی ها وحی دخانون در حالی که آسمان اون زمان دود بود غباری بود دودی بود خداوند اون چیزی که اینجا در قرآن هست با اون چیزی که دانشمندان امروز میگویند مطابقت درگرچی بعضی ها میگویند که الان آسمان که شما میگید هفت طبق آسمان هستند این جسمی نیست این در واقع خلاح هست همو خلأ را که ما به این شکل میبینیم قرآن تعبیر به آسمان میکنه ولی همین هایی که قبول ندارن میدونند و معتقدند و میگویند که قبلا اینها غبار بودند دود بودند بعدن به این شکل تبدیل شدند یک سریع علل طبیعی را ذکر میکنند ولی خب اونها همین علل طبیعی را میبینند ماورای طبیعت که پروردگار خالق حسورا نمیبیند اونهایی که معتقد به وجود آسمان ها هستن امروزه از اهل علم و دانش و سائنس یا اونهایی که معتقد به وجود آسمان نیست همه قبول دارن که قبلا چی بوده دود بوده رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیش از 1400 سال پیش اعلام فرمودن که وحی دخانون پس این دلیل حقانیت قرآن است خب به آسمان پروردگار متوجه شدند و به آسمان چی گفتن فقال لها وللارض اعتیع به آسمان گفتن و به زمین گفتن اعتیع یعنی انجام وظیفه بکنید وزیفهتون را انجام میدهید طوعا او کرهن با خوشی بدون اکراه او کرهن یا با اکراه یعنی بالاجبار یا بدون اجبار هر دو تا جواب دادند ببینید زمین یک سری وظایفی داره آسمان هم یک سری وظایفی داره همه وظایف زمین و آسمان برای کی هست برای ما انسان ها است مثلا به زمین دستور داده شده که مسخر برای ما بشه ما چیکار میکنیم روی زمین برای خودمون راه درست میکنیم از این شهر به اون شهر میریم از این ده به اون ده, ده میریم ما برای خودمون در زمین زمین را شخ میزنیم زمین را میشکنیم برای خودمون زراعت میکنیم ما این زمین را حفر می کنیم از دل زمین برای خودمون آب بیرون میاریم قنات حفر می کنیم چاه می زنیم چاه عمیق می زنیم هرچی که دل بخواد زمین تابع ما هست یا نیست ما برای خودمون در این زمین مسکن و ساختمان ها و غلعه های مستحکم درست می کنیم پس این وظیفه زمین است که هرچی که خداوند برای ما مقدر کرده ما وقتی که می میریم اموات خودمون را در این زمین دفن میکنیم زمین باید از اونها نگهداری بکنند همه اینهایی که وظائف جز زمین هستند بعضی ها ما میدونیم بعضی ها نمیفهمیم هنوز اونها را شاید در آینده بفهمیم پس این وظیفه زمین هست وظیفه آسمان بعضی ها را ما میفهمیم بعضی ها را مثلا از آسمان پروردگار از دو جل برای ما باران میفرستد از آسمان فرشتگان میم به زمین و مایحتاج ما را تکمیل میکنند از آسمان بلاخره نور میاد، خورشید میاد، ماه میتابد، ستاره میتابند، حرارت میآید، از این حرارت انرژی میگیریم، بدن ما انرژی میگیرد، درختان ما انرژی میگیرد، زراعت ما انرژی میگیرد، رشد و نمو ما بر همین، بس این همه، بعضی وظائف مربوط به آسمان هستن که علم ما محدوده، ما بعضی ها رو میفهمیم، بعضی ها رو نمیفهمیم و در رابطه با زمین هم علم ما محدوده پس این وظائفی که زمین و آسمان باید انجام بدهند خدا تعالی به اونها فرمود این وظیفه مال تو زمینه این توی آسمانه الان با خوشی انجام میدیم بل اجبار قالتا اتینا طائعین باراله ما میایم با خوشی یعنی انجام میدهیم با تیب خاطر هر دستوری و هر وظیفه‌ای که به ما می‌دهی ما تو اون وظیفه خودمون کوتاهی نمی‌کنیم ببینید زمین و آسمان تو وظیفه خودشون کوتاهی نمی‌کنند اما انسان تو وزیف در وظیفه خودش کوتاهی می‌کنه خداوند به زمین وظایفی که داده از روزی که خلق شده تا روزی که هست تا اون روزی که کل اذا دقت دکن دکا تو اون روز وظیفه خودش را انجام می‌ده قداما به آسمان وظائف داده از روزی که خلق شده تا روزی که هست تا اون روزی که اذا سماؤن فطرت اذا سماؤن شقت تا اون روز انجام وظیفه می کند اما انسان متاسفانه نه انسان ظالم است انهو کان ظلوما جهولا وظیفه انسان چی بوده؟ که از این نعمت های زمینی و آسمانی استفاده بکند و در عبادت با خدای عز و جل کسی را شریک نسازد خدا را بندگی بکند از رزخ و روزی خدا استفاده بکند اما انسان ظلم کرد بزرگترین ظلم انسان این بود که شرک کرد با خدا شریک سخت پس ان عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال گرسی اون تفسیری که عموما به ذهن شما هست ما اون تفسیر را نمی کنیم تفسیری دیگری همونجا جب می رسیم شاء الله خلاصش اینه که خدا می فرماید ما امانتی و مسئولیتی ارزه کردیم بر زمین و آسمان فا بین ان یحملنها یعنی اونها از خالی کردن دوش امانت انکار کردن یعنی چه؟ یعنی اونها امانت خودشون را درست انجام دادند و حمل یکی هست یک چیزی رو بار به دوش گرفتن یکی هست از دوش به زمین گذاشتن از دوش به زمین گذاشتن یعنی چه؟ یعنی مسئولیت نپذیرفتن زمین و آسمان انکار کردن که مسئولیت نپذیرن بلکه مسئولیت پذیرفتند. خداوند قرار نبود به زمین و آسمان بگه شما نماز بخونید شما حج برید شما فلام بکنید نه از همون روز اول خدا از عزواجل همین وظایفی که الان داره همین وظایف را به اونها سپردن فا ابین این اونها از به زمین گذاشتن امانت یعنی از خیانت انکار کردند بلکه به وظیفه خودشون انجام دن و اشفق را منها از خیانت ترسیدند از بار را به زمین گذاشتن ترسیدند اما وحملها الانسان انسان امباری که به داشت این را به زمین گذاشت به وظیفه خودش انجام عمل نکرد انه کان ظلوما جهولا شیخ ما گونه تفسیر میکند لذا اینجا هم هست زمین و آسمان را خداوند در این صورت این آیه با اون آیه مطابقت پیدا میکنه خداوند از ذوالجلال به زمین و آسمان فرمود که به خوشی اطاعت میکنی دیان و خوشی گفتند کالا تا تین طاعین ما به خوشی انجام وظیفه میکنی. پس خداوند چی کار کرد؟ فقذاهن سبع سماوات فی يومینه. خداوند فیصله فرمود برای اونها هفت آسمان یعنی همون دخان تبدیل بچی کرد هفت آسمان کرد در مقدار دو و اوحى في كل سمائ ان امرها و وحى فرمود يعني حکم فرمود حکم صادر فرمود به هر آسمانی امرها وظیفه یشرا ببینیم ما به آسمان ها دسترسی نداریم که بفهمیم هر آسمانی چه وظیفه ی دارد ولی همین معلوم میشه که خداوند در در هر آسمانی وزایی را برای هر آسمانی مقرر کرده. تشکیلاتی در هر آسمان جدا است که با آسمان دیگه فرق می کند. الله ما ابن كثير در تفسیر خودشون نوشتن رتبه في كل سماين مقررن ما يحتاج اليه در هر آسمان چیزهای معین فرموده که نیازمند همون جاهز من الملاکات و ما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلاه چه وجود ملائکه اونجا چه اشیاء دیگری که خیر از خدا کسی نمیدوند همین قطع که قرآن گفته به همین بسنده میکنیم بیشتر از مسائل غیب هست دخالت نمیکنیم. فقط در هر آسمان بدونید که یکسری وظائف محولی وجود دارد و اوحا فی کل سمائن امرها اما این آسمان دنیا و زینن دنیا الدنیا بمصابیح و حفظه ما اسمان دنیا را آراسته کردیم به وسیله ستاره هایی و همچنین حفظ از شیاطین که در اون ستاره ها بعضی از ستاره ها هایی هست ها که از درون ستاره شلیک میشه بسویه چی؟ سوی شیاطین پس این شحاب ها سبب حفظه اون که در آسمان هست شیاطین میخوان دست داشته باشه اونجا دسترسی داشته باشه ولی نمیگذار ذالک تقدیر العذاب العلیم ببخشی ذالک تقدیر العزیز العلیم این اندازه این حد تعین تعیین از سوی اون ذاتی هست که هم غالب است و هم خیلی آلم و دانه است خب ببینید نکته ای را اینجا میخوام عرض کنم خداوند عزوجل فرمود زمین و آسمان را ما در مدت 6 روز پیدا کردیم در همه آیات است اما ترتیبش چطور هست از اینجا معلوم میشه اول زمین بعدن آسمان در سوره بقره هم از هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء اصمان بعد السماء اما در سورة النازعات غير زينة انجاهس والارض بعد ذلك افضل بحث اصمان است انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغتش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها بظاهر این آیات با هم تعارض دارند اونجا ذکر زمین بعد از اس آسمان است اینجا همس ثم استوى الى متوجه شدید اصلش اگر کسی تدبر بکند در آیات هیچ تعارضی نیست و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما را وقتی که پرسیدند برای بعضی این اشکال پیش آمد که کدوم یک را الله اول آفرید کدوم یک را بعدن ایشون بر اساس همه این آیات جواب دادم فرمود اول خداوند عز و جل زمین را در ظرف دو روز پیدا کرد دوم خداوند سقف زمین را در ظرف دو روز یعنی آسمان را پیدا کرد این دو سوم الان ببینید آسمان بعد از زمین است اما دهو زمین یعنی اصلاح زمین چیه؟ بعد از آسمان بعد از اینکه آسمان سقف را زد بعدن زمین را اصلاح کرد نیاز به کوهی داشت نیاز به آب داشت نیاز به خوراکی داشت نیاز به معادن و فلزات داشت نیاز به زخائر داشت اونها را بعدن اون را میگن دحو الارض متوجه شدید ما میگم بلا نسبت مثل این که اول زمین را شما دارید بعدن خانه را درست میکنید سقفش رو می زنید خب اون سقف بعد از زمین بعد از اینکه سقف را زدید بعدان این زمین را چی می کنید اسلام می کنید مباشرک سرامیک می میکنی، هرچی میکنید چی بعد از اون سقف هست پس این زمین قبل از سقف هم هست بعد از سقف هم هست ببینید هبارت که از ابن عباس شده در تفسیر روح معنی. ان ابن عباس رضی الله تفسیر از واو البیان ببخش. ان ابن عباس رضی الله عنه سو، عن الجمع بین آیه السجدت و النازعات. سؤال شدند که تطبیق بین آیه سوره حمیم سجده و سوره نازعات چیه؟ فاجاب بآن الله تعالى خلق الأرض اولا. جواب دادن خداوند اول زمین را فرید قبل السما. غير مدحوبة يعني اصلاح نشده بود هموار وبرابر نشده بود ثم استوى الى السماء بعد متوجه آسمان شدن فسواهن سبعا في يومين هفت آسمان در زرف الدروس هم تركين جا عمده فرمودا ثم دحل الارض بعدا زمین را اصلاح فرمودا يعني ما يحتاج زمین را در قرار دادن وجعل فيها الرواسية والانهار وغير ذلك در زمین کوها گذاشتن نهرها گذاشتن آب گذاشتن غیر ذلك، همه را گذاشتن پس ترتیب این شد فا اصل خلق الارض قبل خلق السما اصل پیدایش زمین قبل از پیدایش آسمان است و دحوها بجبالها واشجارها و اشجارها و نحو ذالک دحو زمین حمواری زمین اصلاح زمین با کوهایش با درختانش با آبهایش بعد خلق السماء انه هم بعد اس خلق آسمان هست لذا الله عز وجل بفرمات که ذلك التقدير العزيز الاليم إن حد اندازه مال مال اون هست که هم غالب هست وهم هم دانا هست برأساس اساس قدرت و علم دانا ودانائي دانایی همه زمین و وما يحتاج شماله درينها افرید فان اعرض فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اگر به ذهن شریف باشد اول سوره ارس کردم خداوند در این سوره چهار تا دلیل ذکر میفرماید چهار تا دلیل اقلی بعد از هر دلیلی خداوند تخویف بیان می میفرماید بیم میدهد میترسانت لذا اینجا بعد از اینکه این دلیل چی دلیل روشن و واضحی هست هر کسی که ذریعی از عقل و خیرت اگر داشته باشد و از تعصب بدور باشد باید بفهمد که وقتی که پروردگار در خلق آسمان و زمین واحد است در عبادت ها هم باید واحد باشه نباید در عبادت شریک داشته باشه نباید در سجد شریک داشته باشه اما با وجود اینکه بعضی بازم اعراض بکند از بازم بعضم پشت بدهد پس خودش را آماده بکنه برای عذاب خدا الله می فا این اعرضوا اگر اعراض کردند اگر روی گردانی کردند باوجود این دلایل استوید فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود بگو من شما را می ترسانم شما را می از اون سائقه مراد یا خود سائقه هست یا عذاب مطلق مراد از, گاهی از عذاب سائقه تعبیر میشه شه می ترسانم شما را از عذاب مثل سائقه عاد و سمود چون سائقه فقط برای سمود آمد برای عاد طوفان آمد مثل سائق و عذاب عاد و سمود خب عاد و سمود مگه چی شدن؟ اول حالت اجمالیشون را بیان می فرمد بعدن حالت تفصیلیشون شن را ارجاعتهم الرسول من بین عیدیهم و من خلفهم زمانی که پیش این دو قوم رسول آمدن پیامبران آمدن حضرت حود و حضرت صالح حود برای عاد و صالح برای سمود من بین عیدیهم و من خلفهم از جلو و از پشت سر یعنی چی از جلو و از پشت سر یعنی از هر جهت به و و باتیانهم با من جمیع الجهات از جمیع جهات یعنی چی یک بار از راست یک بار از پشت یک بار از جلو یک بار از چپ نه مراد اینه بذل الوسع وسع فی دعوتهم على طریق الکنایه به طریق کنایه گفته شده که نهایت تلاش کردند زحمت کشیدند چی بشن هدایت بشن پس اذ جا اتهم من بین ائديهم و من خلفهم برای چی مطلبی آمدند برای چی موضوعی چرا میخواستن قوم را فحمانند این مطلب الله ای تعبودو الله ائقم پرستش نکنید هیچ حستی رب جز الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملاکا اما اینها اراده گرفتن اراده بر رسالت گرفتن وقتی که رسالت را قبول داشته نباشد دعوت رسالت که توحید هستم قبولش ندارد گفتن لو شاء ربنا اگر رب ما میخواست لانزل ملائکه چی می فرستاد فرشته می فرستاد بجای شما فانا بما ارسلتم بهی کافرون بنا برئ ما قوم نسبت به اون چیزی که شما فرستاده شدید منکریم کافریم یعنی منکریم قبول نداریم چرا؟ ای لا نکتبعوكم و انتم مثلنا شما بشر مثل ما هستی ما شما پیروی نمیکنیم. خلاصه قوم کفر کردند. ای مخاطبان قرآن بعد از این دلائل شما اگر باز هم کفر کنید نتیجه شما هم همون خواهد بود. سائقه و عذاب میاد چگونه آمد اجمالا خاندیم الان تفصیلا فَأَمَّا عاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اما عاد تکبر کرد در زمین بنا حق خدا قدرت بهش داده بود توان داده بود خیلی نیروی جسمانی بالایی داشتند رمادات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد جنان نیرومند و مند که مثل اونها خداوند میفرماید آفریده نشده بود عادون عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق تکبر کردن در زمین بنا حق یعنی حق تکبر را نداشتند وقالوا من اشهد منها قوة انها استكبارا قلت ان کسی قوی تر است از ما از نظر قدرت قوات chi کسی قوی تر از ما الله می فرمم اگه اینا نمیفهمن خدا خیلی قوی است اولا يرو انجا اولا يرو به معنی یعلم يعلم هست اولا يرو آیا نمی دانند نمی بینند اناللہ اللذی خلقهم همان اللہ ان ذاتی که آفریده هو اشد منهم قوة اون شدید ترس از انها از نظر قوات قوی ترس نمی دوننی مطلب را؟ و کانو به آیاتنا یجحدون به خاطر همین تکبر بود که آنها بودن نسبت به آیات ما انکار میکردند کدوم آیات؟ به تکوینیه و تشریعیه همه آیات تکوینی که در آیات تقویني چیث ثابت میشه توحید و یگانگی و در آیات تشریعی همه مسائل اعتقادی و همه مسائل عملی اینها انکار کردند. پس وقتی انکار کردن و تکبر کردن ما چی کار کردیم فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا این کفیت عذاب پس ما فرستادیم بر آنان بادی و توفانی که سر سر این باد سر سر بود سر یعنی چی؟ سر تفسیر مظهری نوشته اون بادی را میگوین که سه سفت داشته باشد یک خیلی تند به وزند سرعت بالایی داشته باشد گاهی انسان وحشت میکنه میگم طوفانی میاد با سرعت 200 کیلومتر در ساعت این دیگه هیچ چیزی نمیگذارد نه تیر برق میگذارد نه درخت میذارد نه انسان انسان رو میبروقه 200 کیلومتر باشد پس سرسر یعنی خیلی شدید شدیدت الهبوب و دومی وصف سرسر شدید و صوت صدای مهیبی دارد سوم سرد سر شدید و برد خیلی سرد است وقتی که او میوزد یخبندان میشه پس این هر سه وصف را برای سرسر بیان فرمودن تفسیر مذهبی نوشته سرسرن ای عاصفن شدید و صوت شدید و برد الله میفرم ما چنان بادی نازل کردیم فرستادیم بر اونها طوفانی که علاوه از اینکه این این افراد که قدشون مثل تنه درخت خدا فرموده اینها به زمین افتادند فی ريحا سرسنا فی ایام النحسات در ایام نحس بعضی گفتن نحسات به معنی متتابعات چون که در آیه دیگه هست که این باد را ما بر انها جاری کردیم و باد وزید بر انها در هفت ایام سبع لیال و سمانیت ایام حسومه سبع لیال و ایام حسومه هفت شب و هشت روز پیاپی حصوم بمانه چیه؟ بعض اینجا گفتن نحسات منه پیاپی با توجه به اون آیه. اما بعض میگن نحسات از نحسست. نحس نحس به زبان فارسی هم نحسه. یعنی شوم در ایامی که اون ایام برای اونها نحس بود. ببینی امکان در خود ایام الله روزهای خداوند فی نفسی نحس نیستند اما در حق اقوام بله مثلا هفته رمزان روز موفقیت سپاه اسلام بر سپاه کفر و شرک برای کفار روز نحسی هست برای مسلمانان روز پیروزی هست روز خوشی هست پس به اعتبار یک قوم روز خوبی هست روز مبارکی هست به اعتبار قوم دیگر روزی چی هست؟ نحسی هست بس اینجا در حقین ها نحس بود و الله اون روز روز نحسی مطلقا نیست پس الله می فرماید که در ایام نحسی ما نازل کردیم این بادره لنو دیقهم عذاب الخزی في الحیات الدنیا به اونها رب بچه شانیم عذاب ذلت بار در زندگی دنیا اما خدا من به این بسنده نمی کند و العذاب الاخره اخزا عذاب آخرت باعث رسوایی بیشتر میشه و هم لا یونسرون در آخرت یاری هم نمی شوند نفی شفاعت قهری است یعنی این خدایان و معبودانی که اونها را پرستش میکردند اینها به نمی رسند و اما ثمود این ام بحث قوم عاد بود اما قوم الثمود اللهم می فرما فهدیناهم ما اونها را راه نمائی کردیم یعنی راه هدایت را نشونی دادیم فاستحب العما على الهدا اونها کوری را بر هدایت ترجیح دادند. یعنی گمراهی را بر هدایت ترجیح دادن اونها را هم خداوند مواجه کرد، فاخزت هم صاعقه تو العذاب لون. انها را هم گرفت صاعقه عذاب ذلت تبار، به مکان ویکسیبند، به سبب آنچه که کسب کردن. یعنی به سبب اعمال مشرکانیشان. اعمال مشرکانیشون چی بود؟ ندا و فریاد و عبادت غیر الله بود. اما در این هر دو جریان ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ما نجا داده مؤمنين را بشارت است آنها يرك ایمان آوردند به توحيد خدا و كان يتقون اي يتقون الشركه والكفر و بودند ان پرهيز میکردند تقوا يعني پرهيز كردن دوري كردن از گناه ولی مراد کدام گناه ها هستند از شرك و كفر و نتي میکردند دوري و پرهيز میکردند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 بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون صلّى الله مولانا عليه اللهم صل على محمد إنّا محمد نعوذ بالله در آيات دلائل عقلي بر اثبات توحید خاندیم که این دلائل در ای خلق آسمان ها و زمین و صلاحیت که اللہ عز و جل در زمین گذاشتن بود اما ابتداعا عرض کردم که بعد از هر دلیلی تخویفات بیان میشه هم تخویف دنیاوی و هم تخویف اخرویی که معنای این تخویفات اینه که اگر شما به این دلائل توجه نکنید دلائلی که قان کننده هست به توحید قائل نشوید برای شما هم در دنیا سختی ها هست و هم در آخرت هست تخویف دنیاوی که قبلا شما خاندید در قوم عاد و سمود بود اشاره به عذاب در دنیا است و یوم یحشر اعداء الله این تخویف اخروی هست و خداوند عز و جل بخشی از احوال قیامت را بیان می‌فرماید که این هم تذکری هست برای اینکه اگر شما توجه نکردید به آیات الهی توجه نکردید به دلائل قانع نشدید به توحید شرک را ادامه دادید در آخرت هم برای شما عذاب هست چنانچه الله تعالی کیفیت عذاب انجارا بین سورت بیان می فرماید و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون روزی که حشر می شوند آیا اعضای الهی دشمنان خدا به سوی آتش جمع کرده میشوند به سوی آتش فهم یوزعون پس آنان به سوی آتش برده میشوند یوزعون را دو معنی کردند بعضی گفتند یوزعون یعنی یوساقون به سوی آتش آنها برده میشوند راهنمایی میشوند و بعضی گفتند یوزعون به معنی یحبسون قال قتاده والسدي يحبس اولهم عن آخرهم لان يتلاحقوا يتلاحقوا يعني yani گروهی را جلویشون گیرند تا بقیه بیایند همه به بی اینها ملحق بشن و همه را به سوی آتش میبرند. لذا حبس میشوند و به سوی آتش می میشوند به سوی آتش برده میشوند حتی اذا ما جاؤوها حتی وقتی که انجامی آیند ها زمیر به طرف نار راجع است جاؤوها ای جاؤ وقتی که در لبه جهنم قرار می گیدند در کنار آتش قرار می گیدند وقتی که نزدیک اون آتش می آیند شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و بما هم به و بر علیه اونها گواهی می دهد گوش اونها چشمان اونها پوست اونها به آنچه که اونها عمل کردند به عمل کردشون گواهی می در روایت ها می آید که وقتی که مجرمین پروندهشون تکمیل میشه پرونده را کی تکمیل می کند؟ فرشته تکمیل می کند ای که محافظ اعمال هست حفظه هست اون فرشته پرونده را تکمیل می کند هرچی که انسان گفته انجام داده شنیده عمل کرده همه تو اون پرونده نوشته میشه. قال قرینو ها هذا ما لدی عتید اون فرشتهی قرین که همیشه همراه انسان هست اون فرشته اعلام می کند پروردگارا ما عتید این پرونده اون چیزی هست که پیش من آماده هست وقتی که فرشته پرونده را پیش می کند خب پرونده بر علیه مجرم هست تمام گزارشات بر علیه مجرم هست اگر کفری مرتکب شده شرکی مرتکب شده ظلمی مرتکب شده گناهی هر چی شده همه تو نوشته مجرم اونجا انکار میکنه میگه خدایا این پرونده مال من نیست من چنین نکردم انکار میکنه مثل همین انکار در دنیا بعضی وقتها یه مجرم این را وقتی که پیش قاضی میبرند اون بازجو اون کسی که پرونده اش را میبندد خب اون گزارشاتی که شنیده و گزارشاتی که به او داده شده برایش نویسد مجرم میری پیش قاضی میگه آقای قاضی اینها هر چی هستند اینا را من قبول ندارم این پرونده را با من مشکل داشتند بر علیه من بستند من قبول ندارم وقت قاضی شواهد و مدارک را می کند شبیه این در روایت ها آمده شبیه این انسان اونجا این کار می کند میگه خدای این فرشته با من مشکل دارد یعنی فرشته را دشمن خودش و مخالف خودش قلمداد میکنه. من گزارشی که ترتیب شده گزارشی که آماده شده من گزارش را باور ندارم قبول ندارم من نبودم این گناهانی که نوشتن این معاصی که نوشته این اشتباهاتی که نوشته من نکردم خدای ازدواجل ازش میپرسد که اگر گواهی از نفس تو از وجود تو گواهی گواه, گواهی, بیاد, گواهی بید گواهی بده قبول داری میگه چرا نه بله قبول دارم خداوند دهانش را مهر میزند اليوم نختمو علی افواهیم بردهانش را مهر میزنیم و تکلمنا عیدیهم و تشهد ارجلهم بمکانو یک سیبون دست های اونها با ما سخن میگوید پاهایشون سخن میگوید که چی کرده پس اینجا گواهی از خانواده خود انسان خانواده انسان اعضای انسان است اینجا هم همین الله میفرماید که وقتی که این انسانها آورده میشه بر پرتگاه جهنم بر لبه آتش قرار میگیرد بر علیه انسان خانواده خود انسان یعنی گوش گواهی میده چی گناهانی شنیده چشم گواهی میده ده چی گناهانی مرتکب شده پوست گواهی میده بیشتر انسان لذت که انسان حاصل می کند با چشم و با گوش و با پوست که قوی لامسه است لمس می کند انسان گرچه بعضی ها پوست را تفسیر کردم به شرمگاه که لذات را احساس می کند لذا الله می فرماید پوست گواهی می چشم گواهی می سمع گوش گواهی می حتی اذا ما جاؤوها حتی وقتی که می آین بر ان آتش می بر لبه آتش قرار می گیرن شهید علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم گواهی میده بر علیه آنها بر علیه این مجرمین سمعهم گوشایشان و ابصارهم و چشمهایشان و هم و, و, و پوستهایشان بی چی گواهی میده؟ مشهود به چی به ما عملون به آنچه که عمل کردند در دنیا فد دنیا بنیسند اون که در دنیا عمل کردند به عمل کردشون گواهی میدهند اینجا انسان عصبانی میشه بر پوست اسوانی میشه بر اعضا خودش اونها را خطاب میکنه شما چرا شما چرا بر علی ما گواهی را دادید و قالو لجلودهم لمشهدتم علینا اونجا انسان ها میگوین به پوست هایشان این سوال تعجبی است عجیبه تو بر خودت داری گواهی میدی وقالوا لجلودهم ميگين بپوستشون پوستشون لمشهدتم علينا چرا گواهی دادید بر علیهما شما چرا گواهی دادید ازا چه جواب می سبحان الله جواب اعضاء قالوا انتقن الله الذي انطق كل شيء ما رب سخن در آورد ما رب سحبت در آورد ان که انتق کل شئی هر چیز رب سخن می آورد اون اللهی که وقتی بخواد هر چیز رب سخن می آید او الله ما رب سخن در آورد و هو خلقکم اول مرت و الیه ترجعون این در وسط جمله معترضه هست برای اثبات قیامت کدوم الله؟ اللہ می فرمات اون اللہ ہی کہ اے انسان شما بار اول آفرید و هو خلقکم اول مره این مبدا است آغاز است و الیه ترجعون این معاد آفرید این نیست کہ خدا خلق بکند و سر بدهد آخر بازگشت هم سوی خدا است و الیه ترجعون فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید اون الله به سخن در آورد حال الله تعالی اینجا وقتی که انسان خودش را ملامت می کند اعضای خودش را ملامت می کند جواره خودش را ملامت می کند پروردگار میگوید، ای انسان شما فکر نمی کردید فکر نمی کردید که یک روزی اعضای خودتون بر علی شما گوابی شد ببینید انسان در دنیا هر کاری را انجام میده مخفیانه انجام میده بلخصوص کار خلاف را مخفیانه انجام میده کسی دیگه نبیند که بلای درست میشه سعی میکنه که کسی دیگه ولی از خودش چطور میتونه مخفی بکنه از چشم گوشش چطور میتونه مخفی بکنه الله میفرمان و ما کنتم تستطرون شما استتار نمی کردید پنهان کاری نمی کردید در دنیا یعنی از هر که پنهان می کردید ولی از خودتون پنهان نمی کردید این یشهد علیکم سمعکم این یشهد از از من این یشهد از اینکه گواهی بدهد بر علیه شما گوش شما ولا ابصارکم ولا چشم شما ولا جلودکم ولا پوست شما از اینها شما مخفی نمی کردید ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون اما شما می پنداشتید فکر می کردید خداون نمی بسیاری از آن اعمالي که شما مرتکب می بسياري بسیاری از اعمالي که انسان مرتکب ميشه مثل اعمال شرکیه شما فکر می کردید خدا خبر ندارد اونچه که شما را بدبخت کرد شما را به حلاکت رساند همین گمان شما هست انسان وقتی که چینین گمانی نسبت به خدا داشته باشد این انسان را بدبخت میکنه عزیزان چیزی که ما را نجات میدهد معرفت پروردگار است شناخت نسبت به خداوند و شناخت صفات خداوند. اگر انسان شناخت کاملی داشته باشد انسان مثلا یکی از صورت های شناختیه؟ ان الله بما تعملون بصير والله بما تعملون خبير انه هو السميع البصير اینا شناخت هستند اگر من معتقد باشم هر سخن مرا میشنود از هر حال من آگاه است هر کاری میکنم خبر دارد این همین شناخت سبب نجاتم میشه اون وقت از زمانی که معتقد باشم خدا منو میبیند دست اصبا خطا نمی کنم. ولی انسان وقتی که شناخ داشته نباشد گمان بد داشته باشد در روایت آمده که ستا از مشرکین آمدن کنار خانه کعبه با هم صحبت میکردن صحابی سخنان اینها را میشهید یکی میگفت که خدای محمد ما را میبیند ما چکار میکنیم میشنود ما چی میگوییم دیگری گفت که اگر بلند حرف بزنیم بلند بگوی میشنود اگر آهسته نه اون ثومی گفت نه نه بلندش را میشنود نه آهستش را میشنود یعنی انسان وقتی که شناخ داشته باشد و این باور را نسبت به پروردگار داشته داشت باشد اون وقت انسان حلاک میشه بیچاره خداون میفرماید ولیکن ظلنتم شما عملا گمان می کردید اینجا بعضی از مشایخ عملا را مقدر کردن چرا؟ چونکه اینطور ما می گیم که خدا ما را بیند ولی الان گناه می کنیم خب اتمن ما معتقد نیستیم خدا ما را می بیند و اگر معتقد بودیم عملا اون وقت نمی کردیم جلوی خدا بس ولیکن زنانتم عملا می پنداشتید الله لا يعلم کثیرم مما تعملون خداوند نمیداند بسیاری از اعمالی که شما انجام دهید حال الله تعالی می‌فرماید چه چی چیزی را چه چی چیزی شما را بدبخت کرد و ذلکم ظنکم اللذیز و ظننتم این گمان شما این گمانی که ظننتم بربکم می پنداشتی درباره پروردگار گمان می کردی درباره پروردگار این گمان ارداکم شما را حلاک کرد فاصبحتوم من الخاسرین به سبب این گمان به سبب این شناخت شما از خاسرین شدید کسانی که دچار خساره ابدی شدند اون گمانشون چیه تفسیر خازن می‌مشت کان الكفار یقولون ان الله لا یعلم ما فی انفسنا ولکن یعلم ما یظهر عموم کفار میگفتن خدا از درون ما خبر ندارد اون چیزی که علنی انجام بدهیم میدوند و ولی اون چیزی که مخفیانه و در ته قلب باشد از, از او خبر ندارد الله میفرماید این سوء شناخت و عدم شناخت شما را کرد این نسبت به ربتان این شما را اردا قم شما را هلاکت فاصبحتم من الخاسرين شما از زیانکاران شدید به خساره ابدی و سرمدی گرفتار شدید. حال الله عزوجل می فرماید اونجا در جهنم که گرفتار شدند به سبب این عمل کرد اگر صبر بکنند هم جایشون جهنم اگر عذر خواهی بکنند هم جهنمه اگر صبر نکنند هم جایشون جانمون. اونجا در دنیا خیلی چیزها هست که انسان را مصیبت را آسان می کنند مثلا یک کسی در به مصیبتی گرفتار میشه صبر می کند خب صبر از صبر و مفتاح الفرج صبر کلید فرج است. میخری یه روزی مشکلش حل میشه. اونجا نه. اینجا گاهی معذرت خواهی مشکل رحل میکنه کسی خونی می از کسی کسی دینی می از کسی بالاخره یک انسان مشکلی گرفتار یک معذرت خواهی میکنه گاهی به زندان میفته یه معذرت خواهی به مافوق می به مسئولین دولتی می همین معذرت خواهی شاید سبب به شکورا رحا بکنند اما اونجا نه این حیلها ای که در دنیا ما داریم این حیلها اونجا موثر نیستند الله میفرماید فایصبروا فنار مثول لهم اگر صبر کنند اهل جهنم باز هم آتش जायेगा ایشان هست چون در دنیا مصائب با صبر آسان میشه اونجا نه وهمچینی در دنیا مشکلات با خواهش و تمنا حل میشه و این یستعتبوا فما هم من المعتبين اگر معذرت خواهی بکنند فما هم من المعتبين اینها نیستن از آنانی که عذرشون پذیرفته میشه معتبین کسی که عذرش پذیرفته میشه از اونها نخواهن یعنی عذرون اونجا پذیرفته نمیشه و قیضنا لهم قرناء فزينو لهم ما بين ايديهم و ما خلفهم ما در ابتدای سورة خدمت شما آرست کردیم که در این سورة شبهی جواب داده میشه که اون شبیه از سورة مامین ایجاد شد. بعضی افراد میگویند که خب وقتی که گفته میشه فقط خدا را صدا بزنید. ما گاهی غیر خدا را صدا می زنیم نتیجه می گیریم هم در بیداری هم گاهی در خواب به ما القا می خوبی کردی گاهی در خواب می بینیم کسی به ما می که فلان گوسفند را فلان پول را فلان صدقه را برای فلان بزرگوار برای فلان ولی نظر کن صدقه کن خیرات کن یعنی در خواب و در بیداری ما مسائلی را مشاهده میکنیم که در این مسائل تایید اونچه که شما میگید شرکست تایید اون ثابت میشه خیلی از افراد هستند در جنگ ها مثلا غیر خدا رو صدا میزنن یک زمانی بعضی میگفتند که ما در فلان جنگ دیدیم یک فلان را زدیم یک از سواری آمد و یک گشتی زد الان انسانهای آمدن انها را فریب دادند یا حقیقتا شیاطین بودن انطور که این آیه می گوید خداوند عز به همه این شبهات و اشکالات جواب میده. الله می فرمد و قیضنا لهم قرنا قیضنا از تقیض است تقیض یعنی آماده کردن احسان کردن گماشتن یعنی ما گماشتیم برای اونها قرانای قرانا جمع قرین است قرین یعنی همدم همراه یعنی شیاطینی که همیشه همراهشون هست آیه سوره مبارک قاف رخاندم قال قرینه ربنا ما اتغیتهو انسان هایی که گمراه میشن یک قرینی همیشه دارن یک شیطانی باشون همراه است که همیشه او را به راه کج و به راه انحراف راهنمایی میکنند روز قیامت میگه خدای من گمراهش نکردم را قال قرینه ربنا ما اتغیتوه ولكن کان فی ضلال بحید لذا این کسی که در بیداری به چشمیت میآید و تو تشویق به شرک میکند تشویق بن ندای غیر الله میکند یا تو ترغیب میده که شما همین کار را همین خرافات را ادامه بده این شیطان است این از زوی رحمان نیست منعه آیه این است و قیضنا لهم قرنا ما گماشتیم برای اونها آماده کردیم برای اونها همراهانی از شیاطین ببینید شیاطین دشمن ما انسان ها هستند در رأس شیاطین شیطان بزرگ ابلیس لعین مگر سوگند یاد نکرت ولا اضلنهم سوگند بزاعت تو پروردگار که من اینها را گمراه میکنم اون چطور گمراه میکند با مکاری ها و توتعه های مختلفی گمراه میکند اون وفود دارد لشکری دارد تیم بزرگی دارد که هر یکی از این افراد و تیمش برای افراد خاصی مسلط میشن و برای افراد خاصی تعیین میشن ما در مقدمه خواندیم که در زمان گذشته خصوص زمانی که انسانها دین نداشتند اعتقادی نداشتند همه شیاطین انسانها را فریب میدادند حتی بعضی ها سفر می شب میخواستند تو بیابان بمانند تو جنگل بمانند شیاطین می آمدن میکردند می, می ترساندند آخر به مردم یاد داده بودند که به رؤوس شیاطین به سرداران شیاطین پناه ببرند اینا هم پناه می بردن می اعوذ به سید هاز الوادی من به آقای این وادی به سردار این منطقه بر رئیسی منطقه الشیاطین و از جنات، به او پناه بردم من شر سفهای قومی، السر نادانا که مرا زیت میکنه مارمی ترسوند. وقتی که به او پناه میبرد، یعنی مرتکب این ورد شرکی میشد، بعد او میگفت که اینا بذارید. الان هم خیلی از شیاطین بر افراد و بر انسانها مسلط میشه، بل خصوص کسانی که باورشون ضعیف باشه. اعتقادشون زیف باشه اینها را بیشتر اذیت میکنند بی تا این افراد بیشتر ادامه بدن به خرافات به شرک به مرز سر قبر گسفن بکشند بسیاری هستن میگن که این تلس هیچ وقت تو را, را, را نمی کند فلان بارگاه فلان آستانه به گاوی نکش شطورین نکش گاو کشتن شطور کشتن یه عبادت مالی هست یعنی به برای فلان بکش برای خدا نکش این شرک است بس کار این شیاطین چیه؟ کار این شیاطین فریب دادن مردم، گاهی به خوابشون میاند، گاهی به بیداریشون میاند، بعضیا در خواب میبینند. از زمان یک خانمی خواب دیده بود. خودش مراجع نکرد کسی دیگر از همسایگانش بی ما گفت خواب دیده که فلان پیر صاحب که در پاکستان از گفته همه اساسیه منزلت را بردار ببر فلان جا بده به فلان و هیچی برای خودت نگذار شوهرش هم زندان بود بدون اجازه گفت جو درسته گفت نه اینا بالاخره وساویس شیطانی است ولی او برد هیچی تو خونش نگذاشته گاهی این طور در خواب و در بیداری انسانها را فرید بینه پس کسی اگر خوابی می بیند یا در بیداری چیزی مشاهده کند این دلیل نمیشه که اون مسیری که دارد مسیر درستی هست نه خیلی مسیر کجی هست مسیر درست ما با خواب و بیداری مشخص نمیشه با آیات قران مشخص میشه با کلام پروردگار مشخص میشه اینجا ببینید ما آلوسی می فرماید بعضی از افراد هستن که می غیر خدا را فریاد می‌زنند در حاجات خودشون و قد یتمثل الشیطان للمستغیث این کسی که غیر خدا را فریاد می زند ای فلان بیا ای ولی خدا ای صالح ای بزرگوار بداد من از بنده حاجت می می‌بیند کسی آمد؟ این شیطان هست اللہ معلی سیمی الشیطان شیطان بشکل چی کسی در میاد فی صورت اللذی استغاس به در صورت اون کسی که او را فریاد زده الان این بیچاره می بیند کسی با اسف آمد با لباس سفید آمد فیظنو ان ذالک کرامت لمن استغاس به فکر میکنه این کرامتی همو فردی که کم او را صدا زدم او فوراً حاضر شد حیحات حیحات یعنی تور نیست این بدور از واقیت هست بدور انما هو شیطان اضل لہو ظاهر شده ان جلوی جلو چشمت آمده ان کی تخابت آمده این شیطانی هست این شیطانی است که تو را دار گمراہ می انما شیطان اضل لہو و اغواہ شیطان اسکی او را گمراہ کرده او را از را بیراہ کرده وزین لہو این مذهبی نیست این هوای نفس این هوای نفس برش آراسته کرده و ذالک کما یتکلم الشیطان فی الاسنام لیضل عبدتها می فرماید این مثل اون سورتی می ماتو ما تو مقدمه هم خاندین که گاهی شیاطین می در اون بطه حلول می اونجایی که مردم بود پرستی میکنند در اون بود ها قرار می گیرند و کسانی که اونجا می رو ان بود ها را صدا میزنند جوابشون را همون شیاطین و جنات می دارند خب این کسی که در بیابان فلان را صدا میزند و جواب میشنود شنود شیطانی جوابش را داده کجا انسان ها انسان های چه صالح باشند چه غیر صالح وقتی از این دنیا می روند خداوند می اون با خودشون گرفتارند اگر صالحی هست تو بهشت عشق می کند در عالم برزخ در نعمت خدا کیف میکنند اگر غیر صالحی هست تو تو عذاب گرفتار اون با تو چی کار دارد لذا ای کسی که جلوی تو ظاهر شده این شیطانی هست پس این گونه خداوند جواب میده این اشکال مشرکین را که شما می ما گاهی نتیجه می گیریم انده ارز کردم گاهی از زبان مسیحیان می شنوید تو این کانال ها همیش اونها از این نو داستان های که بعضی از ما مسلمان نماها مسلمان نماهای ما دارند که خرافات میگویند و داستان می و نام فلان انسان در آخرین لحظات بود یا فلان پیرزن تنها پسرش را داشت از دست میداد ایسا مسیح را صدا زد فورا شخصی آمد این داستان خیلی زیاد است معروف هم است فلان شخصی آمد تو اون بیابان فرزندش را درمان کرد یعنی ایسا مسیح به دادش رسید این یا دروغی یا اینکه حتما اگر راست باشه این شیطانی اونجا حاضر شده و خداوند از زوجل این میادین را میده تا بندگان را مورد امتحان قرار بده انسان نباید بر خوابی و بر داستانی عقیده خودش را مرتب بکند باید بر کلام پروردگار مرتب بکند لذا الله می فرماید و قیضنا لهم قرناء ما گماردیم برای اونها تعین کردیم و آماده کردیم برای آن مشرکان قرناء همراهانی همدمهایی که فزین لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم مزین کردن برای اونها اعمالشان را ما بین ایدیم اون چیزی که جلویشون هست و ما خلفهم اون چیزی که پشت سرشون هست ما بین ایدیم و ما خلفهم بعضی گفتن کنایه هست از من کل جانب یعنی از هر طرف شیاطین میآیند اعمالشون را اعمال کفریه و اعمال شرکیه شون را آراسته میکنند بعضی میگوین ما بین ایدیم و ما خلفهم جلوی انسان چیه دنیا هست پشت سر آخرت بعضی میگن برعکس دنیا را ما در این پشت سر میگذاریم جلوی ما چیه آخرت یعنی اعمالی که مربوط به آخرت است اعمالی که مربوط به دنیا است پشت سر همه رچی میکنند آراسته میکنند کسی که مشرک باشد دیگه اعمالش همه اعمال شرکی است و امام زجاج میگوید که ما بین ایديهم اعمال گذشته اعمالی که انسان در گذشته انجام داده، نظر و نیاز برای غیر خدا کرده، سجده غیر خدا کرده، تواف قبر کرده، طواف غیر الله کرده، اونها را هم آراسته جلوه میداد، خیلی کار خوبی کردی در آینده و ما خلفهم یعنی در آینده، در آینده هرچی نیت دارد فلان میکنم، فلان میکنم، فلان میکنم، اینها را هم برایش آرسته جلوه میده خیلی کار خوبی بیکنی نجات بیایی، رستگار میشی موفق میشی از این شیاطین هستن که انسان ها را فریم میدن از اللهمی فرمید فزینو لهم ما بین ایدیهم مزینو آراسته می کنن برای این انسان های گمرا ما بین ایدیهم آنچه که گزشته و ما خلفه و آنچه که پشت سر آنچه که جلوشان هست و پشت سرشان هست و حق علیهم القول نتیجه اتباع این قرن ها چه میشه؟ کسانی که از این شیاطین پیروی کنند و تابع داری کنند نتیجه این میشه و حق علیهم القول ثابت میشه ثبت میشه برآنان قول یعنی قول عذاب خدا من عذاب را برایشون ثبت میکنند فی اممین یعنی مع اممین یا فی جمله اممین اینها عذاب داده میشوند همراه با باقیه گروهانی که گروهائی که قد خلط من قبلهم من الجن والانس گزشتن قبل از انها از جنات و انسانها جنات و انسانهای که گمراه بودن مشرک بودن در گذشته انها هم همراه با انها در عذاب گرفتار میشون انهم کانو خاسرین همانا این افراد که انطور فریب میخورن از شیاطین انها افراد زیانکار هستند انها در دنیا زیانکار بودند راه خساره و زیان را پیش بردند وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ببین تا اینجا مزامین توحید و رسالت بود حال درباره قرآن مجید این مطالب زیبا مطالب نقد مطالب اصلاحی اینا را شما از کجا یاد میگیرید؟ تو خواب که نمیبینید اینها را از قرآن میگیرید لذا در این آیات در رابطه با قرآن هست و زجر سرزنش زجر قولی زجر بر نقل قول سرزنش برای اونهایی که بر علیه قرآن فعالیت میکردند خیلی ها هستن از قرآن احساس خطر میکنند. می دونند که اگر قرآن آنگونه که واقعا حق مطلب هست گفته بشه تفسیر بشه بیان بشه تمام دکانهایی که اونها برای شکم خودشون درست کردن همه اینها را از بیم می بره چون مردم گرویده قرآن می شند مردم خرافات اونها را دوباره گوش نمی کنند. بین این خاطر قرآن مخالفان زیادی در گذشته هم داشته الان هم داره الان هم خیلی هستن میگن که این حلقه های قرآنی بعضی ها نسبت های ناروای دیگری میدهند اون زمان هم مشرکین به هم دیگه توصیه میکردند که شما گوش نکنید وقتی که محمد میخواند صلی الله علیه و صلی شما سر و صدا کنید هياهو چون رسول الله صلی الله عليه وسلم ميامد در کنار خانه کعبه قرار گرفت وقتی که آیات نازل میشد آیات رمیقات می این آیات چنان جذابیت داشت و چنان دلنشین بود که مؤمنین و مشرکین همه میآمدن گوش میکردند خب سرداران کفر به هم دیگه میگفتند که نباید بذاریم جوان ها گوش میکنم وقتی که ایشون تلاوت میکند سر و صدا بکنیم هیاهو بکنیم و بالاخره مردم را به چیزهای دیگری مشغول بکنیم تا که کسی از قرآن متاثر نشه چنانچه وقتی که آن حضرت قرآن میخاند زیاد شلوغ می کردند. هی درگیری درست می کردند. هی مسائلی درست می الله اللہ تعالی اینجا این مطلب را بیان فرموده و انها را مورد سرزنش قرار داده وقال الذين کفرو لا تسمعوا لهذا القرآن گفتند کسانی که کفر کردند لا تسمعوا گوش نکنید این قرآن رب پیروان خودشون به جوانان خودشون میگفتن ولغوفی لغو کنید در آن لغو یعنی, یعنی چیزهای بیهوده بعضی گفتن ولغوفی منش هست سر و صدا بکنید بعضی گفتن که دیگه خرافاتی اونجا بگید تا مردم به شما مجبول بشند علامه بیضاوی نوشته عارضوه بالخرافات یعنی مبارزه کنید معارزه کنید با خرافات ورفعو اسواتکن بها صدایتون را بلند کنید که تشویشوهو علالقاری تاکه اون کسی که میخاند برای او تشویش ایجاد کنید استراب ایجاد کنید ولغو فی لعلکم تغلبون تا اینکه با این تدبیر شما غالب بشید شما برتر بشید خداوند عز وجل برای انهایی که با کلام خدا مبارزه می وعید بیان می این نتیجه دوری از قرآن فلنذیقنن الذين كفروا عذابا شديدا حتما حتما می ما کسانی را که کف کردن عذاب بسیار سختی ولا هم حتما حتما انها را جزا میدیم یعنی بکیفر کیفر اعمالشان میرسانیم و از اسو الی کانوا یعملون بر پایه بدترین اعمالی که انجام میدادند یعنی بدترین اعمالی که اونها انجام میدادن بر اساس اون بدترین اعمال اونها را مؤاخذه میکنیم به جزای اعمال میرسیم ذالک جزاء اعداء الله النار تاین تا اون جزا خداوان فرمو بدترین جزا چیه این هست جزا دشمنان خدا یعنی آتش لهم فیها دارالخل برای چند روز برای آنان در این آتش هست دار خلود در همیشگی جای همیشگی است هست جزا بما کان و بی آیاتنا یجحدون این جزای آنان است بسبب این که آنها بودن نسبت به آیات ما انکار می کردند آیات ما را منکر بودند پس اینها تو آتش جهنم قرار می گیرند سوال اینجا است که اینها کسانی را که کس صدا می زدند فریاد می زدند اونها نمیتونن کاری برایشون بکنند که اینها تو جهنم می خداوند میفرماید تو اون جهنم هر دو برو میافتند هم اینهایی که از غیر الله استمداد می تلبیدن و هم اون غیر اللهی که راضی بودن برای عبادت خودشون راضی بودن که مردم اونها را صدا بزنند بعض اونجا با هم درگیر می شند جهنم با هم درگیر می شوند وقال الذین کفره می کسانی که کفر کردن ربنا ارنالذین اضلانا من الجن والانس بار الہا ای رب ما ما نشان بده انهایی که ما را گمراه کردن از جنات و انسان ها انجا انسان خیلی اصابانی هست بر اون کسانی که او را گمراه کردن انهایی که او را به این شرک و کفر گرفتار کردن چه جنات چه انسان ها اینو شما بدونید که همیشه شیاطین جنی و انسی دست به دست هم دادن برای گمراهی انسان ها یک گروه هستند که انسانها که فعالیت می کنند شب روز تبلیغ می کنند تبلیغ خرافات تبلیغ کفت تبلیغ شرک تبلیغ استمداد از غیر خدا کشتن گوسفند گاو برای غیر خدا و یک گروه جنات که بنوی اینها را تشویق می کنند و کارهای می کنند چیزهای ایجاد می کنند که اینها دلگرم می شوند لذا انسان وقتی که تو جهنم میفته اونجا از خداون مطالبه میکنه رب برا ارنال لذین به بما نشان بده اللذین آن دو گروه را که اضلانا مارا گمراه کرده من الجن والانس از جنات و انسانا میخواید چکار بکنی نجعل هما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین را قرار میدهم زیر قدم های خودمون زیر پاهای خودمون لهشون میکنیم لیکونا من الاسفلین تا که از اسفلین باشه اونجا ته ته بای بای قرار بگیرن گونه چرا ما را کردند خودشون هم بدبخت شدن ما را هم بدبخت کردند لذا اینهای که حرف شنوی دارند از اون رؤسای کفر و شرک از اون کسان و رهبرانی که مردم را به سوی شرک دعوت میدهند درست در دنیا برای اونها هر چیزشون را فدا میکنن اما اونجا پشیمان میشن اونجا به قول مردم دندان برایشون تیز میکنند ان الذين قالوا ربنا الله خب تا حال ما همیشه وعید خاندیم تخویف خاندیم ذکر جهنم بود و ذکر آتش بود حال بشارت کسانی که بر ایمان خودشون استقامت بکنند بر توحید و بر یک تاپرستی استقامت بکنند خداوند عز و به اونها هم در این دنیا و هم در اون دنیا خلعت عنایت می‌فرماید. چار درجه برای هدایت خدمت شما ارز کردم یکی انابت بود یکی هدایت یکی انسان وقتی که منیب باشد حق طلب باشد خدا هدایتش میکنه خدا که هدایتش بکنه بعدا انسان استقامت بکند از مشکلات نترسد پروان نکند هرچی تهدید و ارعاب و زهر چشم هست همه را تحمل بکند اون وقت خدای اززا وجل ربط القلب نصیبش میکنه هم در دنیا کما کش می کند هم در آخرت هر چارتا را اینجا تو این آیه ببینید ان الذين قالوا ربنا الله همانا انهایی که گفتند ربنا الله ربما فقط الله است استهدل گفتند ربما فقط الله است اینجا هم انابت است ہم ہدایت کسی که دنبال حق باشد دنبال رب باشد او ہدایت میشه و میگه ربنا الله بعد از اینکه انابت و هدایت داشتند، ثم استقاموا سپس استقامت کردند تا دم مرگ، تا آخرین لحظات حیات، نتیجه این استقامت چی خواهد بود؟ تتنزل عليهم الملائکتو الله تخافوا ولا تحزنوا، بر اونها ملائکه فرود می آیند ملائکه نازل می شوند و به می میگویند الله تخافو نترسید غمگین مباشید الله تخافو ولا تحزنوا این که ملائکه میگویند به بندگان خدا که شما ناراحت نباشید کجا کجا میگویند این در دنیا بهشون میگویند تفسیر مهائمین نوشته که تتنزلو علیهم الملائکتو فی الدنیا بالالهام در دنیا در دل انها الهام میکنن در دل انها القام میکنن که ای بنده خوب خدا ای بنده موحید خدا نترس اینها همه بنده هستن بنده ها هیچ قدرتی ندارن در مقابل پروردگار خامیتو خداست لذا کسی که موحید واقعی باشد از هیچ کسی نمی ترسد و او بر مسیر خودش ادامه میده استقامت می کند، نه تهدید او را وادار به عقب نشینی می کند، نه تضمیر متاسفانه بسیاری با تهدید فریب می خورند می ترسند و بسیاری با تضمیر سی و زر وقتی که نشون بدی، بیدی اونها شل میکنند اما موحد چو در پای ریزی زرش این تتمیح هست نه موحد چو در پای ریزی زرش چه شمشیر هندی نهی بر سرش این تهدید است. چه زر و مال به پایش بریزی چه شمشیری به گردنش بذاری امید و حراسش نباشد زکست برین است بنیاد توحید بس نظر کسانی که واقعا استقامت داشته باشند. البته این چه کسانی هستن کسانی که خداوند ربط القلب بیشون ان آیت فرموده ربط القلب یعنی دلشون را محکم و دلشون را گورس کرده الله می تتنزل تتنزلو علیهم الملائکتو ملائکه بر آنها فروت میآیند ملائکه رحمت و بشارت و به آنها میگوین الله تخافو ای بندگان خدا نترسید ولا لا تحزنوه غمگین مباشید باشید و ابشروا ومجدبات بشارت باد شمارا بالجنت به که کنتم توعدون به بهشت شما وعده داده شدید به وسیله انبیا به شما را مجده شما بر همین یک تاپرستی بر توحید بر دین حق استقامت داشته باشید که اون بهشت در انتظار شماست ولو اینکه شهید بشید ولو اینکه کشته بشید ولو اینکه بدار زده بشی و بعضی گفته الله تحزنو معنیش اینه که بر ترک دنیا مو نباش حزن فرق خوف و حزن زیاد این واژه قران میازه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف که انسان از یک چیز آنی بترسد یک چیزه که فعلا انسان را تهدید کند در حال حاضر میترسد کسی اومد میخواد بزنه ولی حزن به معنی غم حزن یا بر گذشته میشه یا بر آینده میشه یه چیزی را انسان از دست داده یه مادری فرزندش را یک سال پیش از دست داده هنوز گریه میکند این غم است حزن یا برگزشت میشه یا بر آینده میشه یک کسی درباره آینده میترسه، هی درباره آینده جوش میزنه ناراحت میشه لذا از طرف ملائکه این الهام میشه بهش تلقیم میشه که نبترس الان هم کسی نمیتونه بات کاری داشته باشه نه در باره گزشتیت غمگین باش نه در باره آینده غمگین باش اگر مثلا گذشته دنیا را از دست دادی سروت را از دست دادی بهترین ها برات منتظره برای آینده هم پریشان نباش خدا را داری اللہ خوف علیه ها اللہ تخافو ولا تحزن و آبشرو بالجنتی که کنتم تعود و مجذبات شما رب بهیش دکشما و عدد دمی شهید بواسیر انبیا نحن اولیا اکم فی الحیات الدنيا و فی الآخرة ما ایم اولیا اشما حامیانی شما بعضی مفسرین گفتند این ادامه قول ملائک است ملائکه میگن ما از شما حمایت میکنیم در دنیا هم از طرف خدا ما معموریم که در کنار شما باشیم در آخرت هم در تمام مراحل سخت آخرت مرحله قبر برزخ مرحله حشر مرحله پولیسرات همه ما در کنار شما هستیم و بعضی میگن نه نحن اولیاؤکم این سخن سخن هر باروردگار است الله می فرماید ما ولی شما ولی به معنی چی حامی مالکم من دون الله من ولی ولا نصر یعنی بغیر از الله هیچ ولی و حامی ندارید و مددکاری ندارید ولی ما الله الله ولی الذين امنوا لذا الله می فرماید ما حامیانی شما فی الحیات الدنیا و فی الاخره در زندگی دنیا و در اخرت در زندگی دنیا یعنی اگر مشکلات در دنیا باشد با القاع سابر با القاع سکون و آرامش و با الهام چیزهای خوب ما شمار حمایت میکنیم و در آخرت هم ما شمار حمایت میکنیم ولکم فيها فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فيها فیها ما تدعویم و برای شما در آن آخرت هست در بهشت هست آن چیزی که دل شما اشتها بکند ولکم فیها ما تدعون و آن چیزی که شما اونجا بخواهید بطلبید اون اولی مرغوبات اضطراری هست دومی مرغوبات اختیاری هست مرغوبات اضطراری اینه که انسان بدون اختیار دلش یه چیزی بخوره اون هم برای فراهم میشه اون چیزی که خودت با اختیار خودت میگی فلان چیز را برای من بیارید اونم برات فراهم میشه اینجا مثلا من شما یه چیزی دلمو میخواد ولی الان فراهم نیست این فصلش نیست اصلا فلان میوه میخوام نیست خب این یه ای چیزی هست که بدون اختیار ولی میدونیم که تو بازار گیر نمیاد عزیز که نمیخاید یک چیزی دیگه هست که تو بازار فراهمه میگه اون برای من بیارید این مرغوب اختیاریه. اون چیزی که میخوایی، چه به صورت استراری باشد، اونجا تو دلت بیاد، اشتهات بیاد، او هم براد فراهم میشه. اون که خودت ادعا بکنی هم برات فراهم میشه. نو ظلم من غفور الرحیم. این پذیرایی هست، مهمانی هست، از جانب اون ذاتی که هم بخشاینده و مهربان هست. خب، بعد از این بشارت خداوند عز و جل طریق دعوت را بیان می فرماید در ابتدای سوره ارز که چندین نو زجر و سرزنش برای کفار بیان میشه در لابلا این ها در طریق دعوت من الان ربطش را با تعبیر دیگه برای شما عرض می ما در اول رکو خاندیم که کفار به هم دیگه توصیه میکردن که لا تسمعوا لی القرآن شما این قرآن گوش نکنید خب اونها بر علیه ما مسلمانان دارند کار میکنند فعالیت میکنند خب ما چی کار بکنیم؟ ما هم درگیر بشیم؟ نه شما با حکمت و بصیرت دعوتشون بدهید شما اخلاق حسنه شن، اون هر خشونت میکنن شما از خودتون رفتار خوش نشان بدهید. و من احسن قولا ممن دعا الى الله این به صورت استفهام است اما ترغیب است. خداوند میفرماید چه کسی سخنش زیباتر است؟ سخنش جالبتر است از اون کسی که دعا الى الله دعوت میده به سوی الله یعنی الی توحید الله بهترین سخن اون سخنی هست که در اون سخن دعوت الی الله باشد مردم را فرا بخانی به سوی پروردگار و به یکتاب یکتاپرستی عبادت پروردگار دعوت میدهد و خودش هم عمل میکند و عمل صالحا و عمل صالح انجام میده وقال اننی من المسلمين برای اظهار اطاعت میگه منم از مسلمان منم تسلیم در مقابل احکام پروردگار شما هم تسلیم بشید این انسانی که با قول و عمل داعی الى الخیر هست از این انسان چه کسی بهتره و از سخن این سخن چه کسی زیباتره خب ولی در راه دعوت برای انسان مشکلاتی هست با داعی همیشه با چالش مواجه میشه با مشکلات مواجه میشه با مزاحمت مواجه میشه آیا داعی وقتی که با مزاحمت مواجه بشه باید تندروی کند تندخوی از خودش نشان بده نه الله می فرمد ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيَّةُ یادتان باشد که اینجا بحث بحث دعوت است سوره هم سوره مکی است بحث جهاد نیست در جهاد وقتی که جهاد باشد و واقعا اون جهاد بعد از دعوت میشه اونجا بر علیه کفار دیگه نرمش نشان نمیده هیدواغلوز علیهم اونجا غلظت و شدت و سختی اما در دعوت نه در دعوت مدارات نرمی حسن اخلاق چه بسات دعوت ها هستند که مشکل از همین جهل میشه نیازی به جهات پیدا نمیشه طرف ایمان میاره طرف قبول میکنه لذا پروردگار میفرمید و لا تستوی الحسنت و لا حسنه یعنی مدارات نرمی سیئه یعنی غلزت شدت سختی اینا با هم برابر نیستند ای داعی الالله ای داعی خیل مبعدا که با سختی دعوت بدیم ببین دعوت شما همه دعوت دعوتگران دین توحید خواهید بود اصول دعوت را خدمت شما عرض بکنم در تمام قرآن شما آیاتی که مربوط به دعوت هستند اینها را بررسی بکنید. در همه این آیات روش روشی نرم هست روشی که خداون توصیه می کند روشی که در اون اخلاق باشد در اون مدارات باشد در اون برخورد حسنه باشد روش مناظرانه مورد تایید نیست الا ما یعنی ما روش دعوتیمون نباید به باشه که ما سعی بکنیم طرف را مغلوب بکنیم طرف را لا جواب بکنیم شرمندش بکنیم خجلش بکنیم این نه اینکه سبب هدایتی او نمیشه بلکه سبب گمراهی بیشتر او و طرفدارانش میشه. در قرآن کریم فقط یک جا ما مناظر داریم مناظر ابراهیم علیه السلام با نمرود لذا نود چی گفت ابراهیم آرام داشت دعوت میداد ربی الذي یحی و ومید نمود سرکش گفت انا اوهی و امید. ابراهیم دید که متوجه نمیشه و مردم را داره گمره میکنه روش مناظرانه را پیش گرفت. که لا جواب بمانه قال فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كفر الله ای فرمید مات و مبهود مانت جوابی نداد اما بغیر از این جریان بقی هر جا آیات دعوت هستند ببینید پروردگار توصیه به حکمت عملی به بصیرت به اخلاق به استدلال به منطق توصیه کند هیچ سرکشی از فرعون نمیتونه بزرگتر باشه و هیچ دعوتگری از موسی هم نمیتونه بزرگتر باشه خداوند به موسی و هارون چی میفرماید هوا الى فرعون انه تقا شما پیش فرعون برید فرعون طغیانگر است فقول له قولا لینا اما اونجا برید با نرمی سخن بگوید نه اینکه از فرعون می ترسند علیه الله خداوند داره میگه خداوند می علت این نرمی را خدا میفرماید فرماید لعله يتذکر او یخشا لعله یتذکر او یخشا شاید فرعون پند بگیرد یا بترسد از خدا خدا که میدوند عالم الغیب اس فرعون ایمان نمی آورد با وجودی که پروردگار می دوند فرعون ایمان نمی آورد باز هم به موسی و هارون میگه شما با نرمش چون که روش دعوت برای من و تو هم از اینجایی میشه مشخص میشه که طرف مقابل ما هر فرعونی بود دعوت با مدارات دعوت با نرمی دعوت با منطق با استدلال با حکمت و بصیرت نه با خشونت بعضی شبکه ها هستند که خب استدلال بیان میکنند، منطق بیان میکنند، دعوت می دهند دعوت سوی ایمان دعوت سوی اعمال اما بعضی ها هستند که رویششون رویش قرآنی نیست هی مردم را دشنام میده هی مردم را بد و بیراه میگویند هی مارک میزنند با این صورت طرف بیشتر متنفر میشه ببینید الله فرماید ولا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ حسنه و سیئة برابر نیستن مدارات تفسیر قرطبین بیشتر الحسنه مدارات السیئة الغلزه مدارات نرمی و سختی و شدت با هم برابر نیستن ادفع باللتی هی احسن اون کسی که به تو بد می کند او را دف بکن با اون اخلاقی که اون اخلاق یا با اون طریقی که اون طریقه طریق احسن باشد طریق احسن چیه؟ طریق محبت عفو گزشت با محبت و با عفو گزشت خصوص برای مسائل شخصی اگر کسی شما را دشنام داد و شما داعی بودید هیچ پروانه نکن اگر مسخریت کرد هیچ پروانه نکن تو اخلاق نیک از خودت نشان بده تو برخاش نکن تو دشنام نده بلخصوص یک داعی به خاطر شخص خودش گاهی برای مقدسات خودش کسی ناراحت میشه این نشان دینش است نشان ایمانش است اما به خاطر شخص خودش برخاش نکند صبور باشد. اگر پروردگار می‌فرماد، ادفاع بلتی هی احسن، دفکن پاسخ بده، بلتی یعنی با اون روش و طریقی که هی احسن اون احسن است، احسن از کردم. بینی زیرش محبت، عاف، گذاشت، احسان، صبر. فاذا لذی بين ک و بينه عداوه، کانه ولي حميم در این هنگام اون کسی که بین تو و بین او عداوت هست بین تو و بین او دشمنی هست که انه ولی حمیم گویا اون دوست صمیمی بشه یعنی قبلا دشمنت بود مخالفت بود اما از اخلاقت چنان متاثر شد اخلاق بسیاری از مشرک اخلاق رسول الله در مقابل بسیاری از مشرکین همین گونه بود که بعداً فطره رسول الله میشدند پس در این هنگام اون کسی که بین تو و بین او عداوت باشد اینجا به بشارت سلامت تابع بشارتی که طبیعت اون طبیعت سلیمی باشد فطرتش فطرت سلیمی بعضی ها از فطرت انسانیت خارج می شوند یا حیوانیت گیرن. می گیرند اونها دیگه هر چی نرمی بکنی بدتر میشن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم قوياون دوست صميميت حس وما يلقاها الا الذين صبروا خداون ميفرميت ان را دريافت نميكنت ان طريقه را إن, ان جبلت أخلاقرا مگر کسانی که سابر کردن و ما یلقاها و این را دریافت نمی کنن الا زو حظ عظیم مگر کسی که دارای بحری بزرگ باشه. کسانی که دارای بحری بزرگ هستن خداوند به آنها سینه وسیع داده آنها می توانند این روش را پیش ببرند و این روش بسیار مفیده برای اسلام و مسلمین خب گاهی اینطور میشه که انسان عصبانی هم میشه خدا من اگر عصبانی شدی از شر شیطان به رحمان پناه ببر به پروردگار پناه ببر و اما ینزغنک من الشیطان نزغن اگر به تو رسید نزغ میگویند زخمی که با نیزه باشد ولی اینجا مرد وسوسه هست اگر به تو رسید از جانب شیطان نزغن فشاری وسوسی زربی فاستعذ بالله پناه ببر به الله اینه هو السميع العليم همانا اون ذات هر چیز را شنواز هر چیز را دانست خدا بهتر میداند. اون وقت وقتی به خدا پناه ببری خدا اصلاحت میکنه درست میکنه. خب پس تا اینجا هم زجر و سرزنش بر کفار بود و هم بعد از اون روش دعوت کفار و من آیاته اللیل این دلیل دیگری از دلائل عقلی هست بر اثبات دویدی که را شما قبلا خاندید این دومی هست از آیات پروردگار شب و روز هست آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر ما خرشید این ماه و خرشید است که دورانی اونها چرخش اونها شب و روز را به وجود می آورد این نعمت ها معمولی های نیستند نظامی که ما داریم اصلاح نظام ما به همینها بستگی دارند اگر اینا تعدیل بشند نظام هم خراب میشه عیش دنیا خراب میشه زندگی دنیا بس اینا از آیات عظام پروردگار هستند که مردم روزمره این آیات را مشاهده میکنه ولی فکر نمیکنند چه آیاتی پروردگار این آیت فرموده اما اینها آیات هستند آیات الهی هستند اینها را خدا خلق کرده اینها معبود نیستند بعضی متاسفانه به انحراف کشیده میشوند اینها را پرستش میکنند بعضی ش... خورشید را بعضی مه را مظاهر قدرت پروردگار را لز الله می فرماید اینها از آیات من هستند شب از آیات روز از آیات خورشید از آیات ماه از آیات لا تسجدو للشمس ولا للقمر شما سجد نکنید شمس را خورشید را و ماه را وسجدو لله الذي خلقهن سجده کنید فقط الله را آن الله یکی اینها را آفرین اگر شما خالص می‌خواهید او را عبادت کنید ان تعبدون اگر خالصتا او را عبادت می‌کنید بس فقط خدا را سجده کن دیگه پیش کسی دیگه سجده نکن و خودت را خم نکن فا اینستک برو این خدا میگه سجده کنید معنیش نیست که خداوند نیاز سجده ما هست اینجا خداوند تعالی سرزنش میکند کسانی را که ابا میکنند انکار میکنند سجده خداوند خدا, خدا میفهمد اگر تکبر کردند انکار کردند سجده مرا نگران نباش فالذین عند رب آن مخلوقاتی که پیش پروردگار هستند این عنده زیرش بنویس رتبتن کسی فکر نکنه که فرشتگان مکانان پیش خدا هستند نه خداوند از مکان پاک است جای مخصوص خداوند نیست که بگیم اونجا از نظر مکان نزدیک پروردگار نزدیکترین فرد به خداوند اون کسی است که خدا رو بیشتر عبادت می‌کنه ملائکه بیشتر عبادت می‌کنه اگر شما شب و روز خدا را عبادت کنی شما نزدیک که خدا قرار می گید. پس مراد از عند اند مکانی نیست عند رتبهی هست فالذین عند ربک انهایی که رتبتن نزد پروردگارت یسبحون له باللیل و النهار تسبیح و پاکی خدا بیان می شب و روز یعنی علی الدوام و هم لایس و آنها خسته نمی شوند. شب و روز خسته نمیشوند ببینید من و شما عبادت کنیم خسته میشیم این نکته یادم ای نیست کدوم مفسر نوشته بود یه وقتی دیدم بسیار جالب بود برای ما اگر انسان اگر انسان از واقعا به عبادت پروردگار مشغول بشه و از گناه و از معاصی دوری بکند این انسان رتبهش از ملائکه بالاتر میره چطور؟ هیچ انسانی نمیتونه شب و روز سجده بکنه شب و روز تصمیح بکنه اونا که شب و روز تصمیح میگن چطور رتبه تو از اونها بالاتر میره؟ به دلیل اینکه وهم لایس امون شما خسته میشه اونا خسته؟ نمیشه شما اگر عبادت میکنید شما اگر تصمیح میگویید تسبیح شما بر اساس چی هست؟ اختیار هست و این کمالی هست برای شما. اما عبادت فرشتگان، تسبیح فرشتگان بر اساس اختیار نیست، اونا مجبور عبادت میکنند. به همین خاطر خسته نمیشه چون خداوند در فطرت اونها را گذاشته. متوجه هستید؟ مثالش مثل اینه شما من و شما همه ما انسانها فقط روزها نفس میکشیم یا شب هم نفس میکشیم شب و روز این نفس کشیدن در فطرت ما هست نه از این خسته میشی هیچ که خسته نمیشه شب و روز نفس میکه خداوند در فطرت فرشته تسبیح را گذاشته اون بدون تسبیح نمیتونه باشه بمانه همون طور که شما بدون نفس نمیتونه باشید اون بدون تسبیح نمیتونه باشه. پس تسبیح او کمال نیست خداوند در جبلت و فطرتش گذاشته به همین خاطر فرمود و هم لایس امون پس وقتی که ما اگر عبادت بکنیم ما اگر تسبیح و تقدیس زیاد بگوییم از گناه و معاصی دوری بکنیم به این دلیل رتبه ای انسان ها از فرشتگان بالاتر میشه بنابراین این الله می فر... الله بی است چون اونها تسبیح پروردگار را میگن شب و روز و من آیاته انک تر الارض خاشعت خداوند عزوجل آیه دیگر از آیات خودش اینجا بحث شمس و قمر لیل و نهار آمد اما آیه دیگر از آیات که این آیه هم آیه توحید هست و هم آیه اثبات قیامت هست ببینید باران که میده پروردگار میده زمین رکی سرسبز و شاداب میگرداند پروردگار غیر از خدا کسی این دلیل توحید شد اما از طرف دیگر همین دلیل دلیل اثبات قیامت هست یه زمین هست که زمین خشکی هست زمین فرورفته ای هست اصلا تکان نمی خورد ذره شما بر اون زمین سبزی و گیاه و بوته نمی بینید اما این زمین یه روزی میرسه که خدا باران می باران بر این زمین این زمین بعد از این که باران میاد یک مقدار برامده میشه پف میکنه به اصطلاح تکان میخوره ربط و انبتت حرکت میکنه و میرویاند شکم باز میکند از دل زمین بوته و گیاه میاد بیرون زنده شد یا نشد اون ذاتی که این زمین را تونست زنده بکنه زمین مردرا تا دیروز اثری نبود اون ذات انسان مردرا هم زنده میکنه. یکی از دلائل بعث بعد الموت همین هست که در سوره های متعددی می الله می فرماید و من آیاته از آیات پروردگار این هست که انکتر الارض خاشع همانا تمی بینی زمین را خاشع تن ته فرو رفته پاین فاذا انزلنا هرگا ما نازل می بر آن آب را تکان می خورد احتزت اگر کسی اندازگیری بکند سانت بکند میدوند که بعد از باران زمین متفاوت میشه و ربات و بالامیات بلند میشه بلندتر میشه. اینالذیه احياها لموحی الموتا این جمله موتارزه برای ثبوت قیامت همانا انزاتی که احیاها این زمین را زنده کرد لمحی الموتا البته زنده کننده مردها هست همون ذات مردها را هم زنده می کند همون طوری که در این زمین باران میاد و زنده میشه، در در ها هست که قیامت وقتی میشه هم باران میاد باران که میاد مردها از قبرها می بیرون انه على كل شيء قدير این اثار قدرت ها که اینا قدرت هایی هستن که ما همیشه چیزی میبینیم چطور این دنیای تاریک را یک لحظه روشن میکنه این دنیای روشن را یک لحظه تاریک میکنه شب میشه روز میشه این زمین خشکیده را یک روزه چمنزاری میکنه چند روزه چمنزاری میکند این آیه را همه میدونیم لذا انه على كل شيء بس قیاس کن اون ذات بر هر چیزی قادر هست به این آیات اگر ما خوب توجه بکنیم تدبر بکنیم همین آیات ایمان ما را هم تقویت می کند چیزی به اندازه قرآن نمی تونه باعث تقویت ایمان بشه هر یکی از ما نیاز داریم ایمانمون را بیشتر بکنیم به همین خاطر فرمودند مؤمنین که اذا طولیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا لذا نه تنها این آیات را برای یادگیری میخانید بلکه برای تقویت ایمان به این آیات تدبر بکن خداوند چگه قدرت دارد هر کاری که او بخاد میشه ان الله علی کل شن قدیر یکی دوتا نمونه برای من شما بیان میکنن بقیه قیاس بکن ان الذين يلحدون في آيَاتِنَا لا يخفون علينا و بعد از دلائل ارز کردم تخویف می آید تخویف می آید حال این هم دلائل خاند خاندیم سمع اهل شرک و اهل خرافات هم رسید بعض هم کجروی را اختیار می کنند بعض هم راه انحراف را و راه خرافات را می پسندند خداوند می ان اِنَّ يلحدون في فِي آیاتِنَا همانا انهایی که در آیات ما کج رویر اختیار می‌کنند. الحاد راه کج گرفتن لحد قبر دیدید قبر را مستقیم انسان حفر میکنه به لحد میرسه کج میره بس یلحدون معنیش هست یا حرفون چکار میکنند؟ بانحراف مرون با چه بانحراف مرون بالتأويلات بالتأويلات الباطلة خیلی از مسلمان نماها هستند كآياتي كآيات واضح هستند روشن هستند بالتأويلات بالتأويلات الباطل تو ان آيات انحراف میکنند سعي میکنند مردم را گمراه بکنند اون یک گروهی هست من بعضی از تعویلات را در آینده خدمت شما ارز میکنم یک گروهی از اهل خرافات هست معتقد است که رسول الله بشر نبود بظاهر بشر بود شیره هاشون را خانده برای شما بظاهر بشر بود اما نور من نور الله بود نور از نور خدا که خدا فرستا دوره لذا همون صفات خدایی را داره وقتی که بهشم میگویم که شما چطور پیغمبر را میگن نور در حالی که خدا گفته قل انما انا بشر مثلكم ای پیغمبر اعلام کن که من بشری هستم مثل شما در بشریت بین من و بین شما تفاوتی نیست تفاوت اینه که من رسول خدا هستم یوحا ایلی بسیار من وحد شده که انما الاغکم الاغود چطور تعویل میکنه تعویلات باطل اینها را میگن میگه نه شما ترکیبی این آیه را بلد نیستید اصل آیه اینه قل انما انا انا من منم اما بشر مثلکم بشر انا هستم مثل شما باش من نیستم مالش اینه این انحراف این تعویل باطل پس کسانی که در آیات ما کجراوی را اختیار میکنند راه انحراف را اختیار میکنند با تعویلات باطل الله میفرماید لا یخفون علینا اینا بر ما مخفی نیستند اون مله دین فروش که آیات سریح توحید را میبیند ولی بخاطر اینکه دکانش تأثیر نشه مردم را فریب میده میگه نه توجیه این آیه اینه تعویل این آیه اینه این آقا نفهمیده خداوند میفرمای اینها لا یخفون علینا بر ما مخفی نیستند پایینش بنویس حتما به جزای اعمالش میرسند خداوند تهدید میکنه اینها را دیگه تو که داري مردم را بجای هدایت به انحراف دعوت کنی به عبادت غیر الله دعوت کنی به استمداد و کمک گرفتن از غیر الله دعوت کنی تو بر من خدا مخفی نیستی زفر و اردگار مفرمات افا من يلقى في النار خير اما من يأتي آمنا يوم القيامة سبحان الله مقاياسة هست بين يك منحرف و يك انساني كي برصراط مستقيم هست بين يك مشرك وبين يك مؤمن و موحد الله مفرمات آية انها باهم برابر هست افا من يلقى في النار آية ان كسي در آتش انداخته مشه فاين اسم من مثل اين ملحد چون بعد از ملحد آمد مثل این ملحد که تعویلات باطل می کند آیا اون کسی که در آتش انداخته میشه خیر خیرون او بهتر است اما یاتی آمین یوم القیامه یا اون کسی که ایمن می آید در روز قیامت اون کسی که خدا را بیگانگی قبول داشته فقط خدا را عبادت کرده روز قیامت ایمن و بی خطر پیش خدا حاضر می از این دوتا کدوم بهتر است؟ لذا بعد از این که حق واضح شد پروردگار می فرمد اعملو ما شئتم این امر امر بقائی هست و هم امر توبیخی هست عمل کنید هر که دوست دارید هر چی می خواهید بکنید ولی بدونید به بما تعملون بصیر سبحان الله وعید خدا سخته خداوند به اون که شما عمل می بیناست اون که شما فریب میدید و مردم را به انحراف میکشید خدا بیناست خدا همه چیز شما را می و خبر دارد. ان الذي كفرو بهذکر لما جاءم و بعد خدای عز و جل در بار قرآن و بالخصوص انکار قرآن کفر به قرآن برای انها. وعید بیان میتنید همان کسانی که کفر کردن به قرآن به ذکر یعنی بالقرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقرآنَ لِلْذِكْرِ قرآن ذکر است قرآن از طرف پروردگار پندی هست اندرزی است یکی از نامهای قرآن ذکر است بس کسانی که کفر کردن به قرآن لما هم وقتی که این قرآن پیش آنها آمده و از كفر کردن خبر إن مقدر است إن الذين كفروا الذين كفروا اسمه معاندون خبر است إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم معاندون إنها أهل إناد إنها ان در واقع غرفتار زدند وإنه لكتاب عزيز إن كتاب كتاب عزيزي هست عزيز يعني نادر پرشوكات کتاب گرانقدر قدر ارزشمند چنان گران قدر ارزشمند که لا یاتیه الباطل من بین یدهی ولا من قلفه باطل در این قرآن نمی آید از جلو و از پشت یعنی از هیچ سمتی سخن غیر واقعی در قرآن جایی ندارد تنزیل من حکیم حمید این علت چون که این نازل شده از جانب اون ذاتی که حکیم هست هر سخنش با حکمت است، حمید هست ستودش شده هست ذاتی که حکیم هست حکمتش جابرانه نیست حکیمانه است لذا کلماتش تمام کلمات حکمت و بصیرت هستند از جانب او آمده لذا باطل تو این قرآن جایی ندارد ما يقال لك الا ما قد قيل من قبلك خداوند میفرماید ای پیامبر من به شما گفته نمیشه اون چی که گفته شد برای رسولی که قبل از شما بودن به رسول قبل از رسول الله چی گفته شد اینکه چرا پیامبر چرا خداوند فرشته ای را به عنوان پیامبر نفرستاده چرا خداوند شما را فرستاده چرا خداوند اون چی که ما میخواهیم آیه و موجزهی که ما میخواهیم او را نازل نمی کند خب وقتی ما قبول نمیکنیم چرا خدا را عذاب نمیده؟ هر چی که به امتها و به امتهای گذشته به انبیاء گذشته گفتن؟ گفتند قریشی به رسول الله گفتند خداوند می به شما اون چیزی را که به گزشتگان گفته شد می اما پاسخی اونها ما یقالو لکه الا ما قد قیله للرسول من قبلك گفته نمیشه به تو مگر آن که گفته شد به رسولی که قبل از شما خب الان سوال این است وقتی که اینها هم اهل عنادند و به پیغمبر مثل امم گزشته هم که چه گفتن چه جوابی داد این همون جواب را میده؟ چرا خدا عذابشون نمیده چون که خداوند میخواهد بعضی را مغفرت کند بعضی را عذاب خداوند تعجیل نمیفرماید چرا؟ چون که این نتیجه است ان, ان ربک لدو مغفرت و دو عقاب علیم همانا رب تو هم دارای مغفرت است برای کسانی که متوجه بشند برگردند توبه کنند اما کسانی که به اناد ادامه بدهند و ذو عقاب علیم برای معاند داره عذابه درد ناکست اون هم مطالبات عجیب و غریبی داشتند مشرکین حال خداوند بعضی از خواستها و مطالبات اونها را ذکر بیکنند یکی از مطالباتشون این بود که خب شما خودتون عرب هستید این قرآن هم به زبان عربی هست شما اگر واقعا پیغمبر خدا هستید به زبان غیر عربی بیارو میخواستن امتحان بکنن به زم خودشون خداوند از زوجن میفرماید اگر به زبان غیر عربی یعنی به زبان عجمی بیاریم فایده هیچیه مخاطبان مخاطبان عربی کتاب کتاب عجمی وقش مامي قتشرة كتابي أوردى كمان نبي فامي. ولو قل ولو جعلناه قرآناً أعجمياً قال تفسير مازاري قفته قال الكفار اقتراحاً وتعنطاً أزروي مطالبه والزد قفتن هل لا أنزل القرآن باللغة العجم تشرة القرآن بزباني عجم نازل شده. الله ميفرمه ولو جعلناه قرآناً أعجمياً اگر ما این را قرآن عجمی قرار می‌دادیم دادیم قالوا لولا فصلت آیاتو چرا آیاتش واضح نیستند فُصّلت صبح هم خواندیم این سوره هم سوره فُصّلت است آیات روشن نیستن واضح نیستن ما نمی‌فهمیم چرا غیر مفهوم هستند الله میفرماید اعجمی و عربی اعجمی یعنی ای کتاب اجمی و مخاطبان عربی امت عربی گرچه امت رسول الله فقط عرب ها نیستند اما امت اولی و مخاطبان اولی عرب بودند خداوند از عز عربها عرب ها را انتخاب کرد و کتاب را به زبان عربی چون زبان عربی در میان تمام زبان های دنیا افسح لغت هست ترین زبان است. و غیر از اینکه فسیختارین زبان هست زبانی هست که هر کس یاد بگیرد و زبانی هست که زبان اهل بهشت این اعتراض را که میگن چرا خوب به زبان دیگه نشد حتما اگه به زبان دیگه میشد همه اعتراض میشد اما مزایایی که زبان عربی داره هیچ کسی ندارد قل هو للذین آمن و هدا و شفاء شما که گرفتار عناد و زد هستی شما نمی گید اما کسانی که گرفت ان آباد قرآن برای اونها هم هدایت هست و هم شفاح هست هدایت هست یعنی راهنمایی نمائی میکنن سوی کارهای نیک و شفاح هست انها را نجات میده انها را شفاح میده از شرک و از گفر و از تمام آلائشا وقتی که اونها قرآن را در سینه میگیرن قرآن به قرآن عمل میکنه از همه آلودگی چی میشن نجات پیدا میکنن والذین لا یؤمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمى اما ما بعضی ها شفاره ترجمه کردن جلوگیری از گناه چون قرآن اگر واقعا در زندگی بیاد انسان را از هر گناه و معصیت از شرک و کفر گرفته تا معصیت کوچک انسان با جلوگیری میکنه از این جد شفا هست هر گناه یک مرضی هست والذین لا یؤمنون اما کسانی که ایمان نمی آورند به این قرآن اناداً فی آذانهم وقرن انادن ایمان نمی آورند خوب دقت بکنید مشرکین قرآن را می فهمیدند که کتاب خود هست تفسیر ابن کسیر یه روایتی آورده که هنی سرداران کفر و شرک مثل ابو جهل و وليد و امیه و اطبا و شعبه امثال انها انها به جوانان می گفتن قرآن گوش نکرد وقال الازین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن اما خودشون دوست دکی می رفتن گوش می چون قرآن عجیب بود، اونها لطف و لذت می بردند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار خانه کعبه چی می کرد، قرآن تلاوت می کرد، همه جمع می شدند، همه گوش می کردند. در روایت هست وقتی که سوره نجم نازل شد سوره نجم یک وزن و یک قافیه خاصی دارد وال نجم اگر هوا ما ضل صاحب و ما غوا وما عن الهوا رسول الله به این شکل داشت ادامه میداد می برد آیات را می خوان تا آخر همه و مؤمنین گوش می کردن آخر سوره مبارکه نجم آیه سجده است وقتی که آیه سجده را خواندند آن حضرت صلی الله علیه همه به سجده افتادند هم مسلمان و غیر مسلمان فقط یک کسی بود که متکبر بود میگن امیه بود امیه بن خلف او سجده نکرد او سنگی برداشت و بر پیشانیش گذاشت یعنی همه بلا استثناء منقلب و متاثر می شدند از قرآن هاو روایت ابن را میخواستم از کنم اون روایت هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقت سحر قرآن می‌خوند بهترین وقت قرآن خواندن وقت سحر است اونم در نماز تهجد خداوند فرمود یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا شما حافظان به این عمل کنید نیمه شب بلند شو نصفه او این قسمه او زد عليه و رد فلی القرآن ترتیلا قرآن با ترتیل و زیبا بخان لذا آن حضرت صلی الله علیہ وسلم سهرگان هر شب قرآن میخاند اطراف خانه رسول الله صلی الله علیہ وسلم صدای قرآن تا دور میرفت اون زمان نه بود نه برقی بود نه سر و صدای بود نه دستگاهی روشن بود لذا دور اون طرف روستا اگر یکی چیزی میخوان این طرف گوش میکردم میشنیدم لذا تو این روایت ابن کثیر نوشته یک شبی چند نفر یکی ابو جهل بود یکی غالبا امیه بود یکی دیگر از سرداران گفت هر یکی رفته بودند و دزدکی گوش میکردند آن حضرت قرآن خاند خاند تا اینکه وقت فجر شد این وقت اینها برگشتن برگشتند وقتی که برگشت هم دیگر را دیدند شرمنده شدند هر یکی از هم دیگر که ما به بقیه میگیم گوش نکنید خودی ما میایم گوش بیکنیم گفتند که ما کار اشتباه کردیم شما برای چی آمده؟ گفت آمده بودم گوش کنم چی میخونه اون دیگری همینه گفت سومی همینه گفت بعد گفتن که اگر این جوان ها ببینند که ما گوش میکنی اونا هم میان گوش میکنند پس با هم عهد میبندیم دوباره نمی آئی. با هم عهد بستن که دیگه نیایند گوش نکنند اما شب دوم دو اللهم ابن کسیر نوشته که هر یکی فکر میکرد اون نمیاد من تنها من برم هر ستا دوباره رفتند دوباره با هم ملاقات کردند دوباره شرمنده شدند و بار دوم هم عهد کردند دیگه فکر کردند که بقی نمیان شب سوم سو همه میتوا گفتند تا سه شب شب سوم وقتی که دیدن احساس خطر کردند که ما ها میایم آخر مردم همه به این سمت و سو آخر یک سوگند غلیظی بین خودشون گذاشتن و عهد کردند که دیگه نیاییم بعد از اون نیامدند منظور اینه که اینا اینقدر از قرآن متأثیر بودند اینقدر منقلب می شدند که قرآن را در حالی که از نظر فساحت و بلاغت خودشون حرف اول را می زدند ولی دوست داشتن قرآن بشنبه می این کلام کلام بشر نیست پس چرا ایمان نمی آوردند؟ انادن بود لذا خداوند وانده عز و جل می فرماید کہ والذین لا یؤمنون کسانی که ایمان نمی آورند جب انیش کسانی که انادن ایمان نمی آورند فی آدانهم واقر در گوشهای انها بار هست بار معنوی خدا گذاشته که قرآن در درون نمی رود. و هو عليهم عما و این قرآن بر آنان عماه است. عما یعنی سبب نبینایی. ببینید برای مؤمن قرآن سبب بینایی میشه یا نمیشه؟ چشمش باز میشه قلبش روشن میشه. اما برای مشرک قرآن سبب نابینایی میشه. و قرآن را وقتی که گوش میکنه چی؟ متوجه نمیشه اولائی که ینادون من مکان بعید این مثال دوم اولین مثال همین نابینایی آئی دومین مثال الله میفرد اینها مثل کسی هستن که ینادون ندامی شوان صدا زده می از جای دور از جای دور از یک کیلومتری، از ہزار متری، کسی را صدا میزن فلانی انکار را بکن اون شاید صدایت را می ولی چیزی نمی فهمد الله می اینها چنان هستن ای هم کلمناده تفسیر جلاله نوشته ای هم کلمناده من مکان بعید لا يسمعو ولا يفهمو ما يناده به نمی شنوید و نمی فهمد که چی نظامی میشه. و اگر بشنود فقط همون صوت را میشنود نمیفهمد نمی فهمد چی گفته میشه. لذا برای اینها قرآن قابل درک فهم نیست ولقد آتینا موسى کتاب این جواب یک شبهه دیگه است جواب این شو برش مخان که چرا قرآن به زبان عجبی نازل نشده حال یک شبهه دیگه بود که چرا قرآن یک باره نازل نمیشه تدریجا نازل میشه کم کم نازل میشه خداوند عز وجل میفرمه چون اینها میگفتن چرا مثل تورات موسی یک جا نازل نمیشه حال خداوند می این بحانهی هست که شما دارید اگر یک جا نازل می شد هم شما ایمان نمی الان اینکه تدریجا نازل شده خیلی حکمت ها داره خیلی فواید داره ولی بالفرض اگر مثل تورات یک بار نازل می باز بعض هم شما ایمان نمی مگر تورات که بر موسی یک بار ناظر شد بنی اسرائیل پذیرفتند نه خیر اونجا هم اختلاف شد گروهی قبول کردن گروهی دیگه قبول نکردن حتی اکثریت قبول نکردن گفتن چل روز رفتی شاید خودت نویشتی اینا موسی علیه سلام گفت نه این از طرف خداوند است گفتند که پس ما باید خودمون کلام خدا را بشنویم. موسیٰ علیه السلام فرمود که خب هفتاد نفر جمیر انتخاب بکنی هفتاد نفر و اتخاد چی سبعین رجلا از نخبگان از بهترینها ها انتخاب کرن رفت اونجا اونجا کلام پروردگار را کما یلیکو بشانهی شنیدند اما بعد از کلام پروردگار را شنیدند بعض هم گفتن لن نؤمن نرى الله جهرت این عالم بهترین ها بودند خداوند اونها را به وسیله سائقی نابود کرد موسی دعا کرد خدا اینا اشتباه کردند دوباره زنده شدند باز برگشتند باز برگشتند ببین کتاب یک بار نازل شد برگشتند گفتند بله ما شنیدیم کلام خدا بود خداوند فرمود اما یه چیز اضافه کردند گفتند هر کسی اختیار داد هر کسی عمل میکنه عمل بکند هر کسی نمیکنه نکند باز اینها گفتن که پس ما از ثوانی من خارج نمی‌دونیم. خداوند کوه دور را بلند کرد و رفعنا فوق کمتر و از الجبل فوقهم کانه ظلنت و ظن انه واقع بهم یعنی که نالن کوبرم می‌افته. پس خداوند اینجا میپرسه و متره می‌فرماید. شما که میگوید یک بار نازل بشه تواد یک بار نازل شد اونجا چرا اختلاف کردند چرا برخی پذیرفتند برخی نپذیرفتند وقد آاط ای نام موسل کتاب هم نام دادیم کتاب فخت ففی اختلاف شد در آن خب این هم قرآن ا همه اختلاف است بی خود میگید که یک بار نازل بشه ای ما میادی نمی آلی سوال دیگر خب میگویند که وقتی که ما ایمان نمی آوریم شما هم ما را می ترسونید که عذاب میاد چرا عذاب نمیاد عذاب بیار خداوند اززا و جل جواب این را میده این ولولا کلمتون جواب این است که پس چرا عذاب نمیاد خداوند می ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهما اگر کلمه پیشی نگرفته بود از جانب رب یعنی کلمه منظور وعده عذاب است وعده عذاب را قبلا خدای عزوجل صادر فرموده که فلان تاریخ میشه بعضی عذابشون در همین دنیا در فلان تاریخ بعضی عذابشون در اون دنیا خداوند که تای میفرماید این دنیا را یا اون دنیا را برای عذاب ولی اصلش اون دنیا است اگر اون وعده عذاب قبلا سابقا از طرف پروردگار صادر نشده بود لقضیه بینهم عملا بین اینها چی می شد فیصله می شد ولی خداوند چونکه از قبل تعین فرموده بر اساس اون تعین خدا عذاب میاد و انهم لفی شک منه مریب اما با وجود این اینها در شک هستند از این از, از عذاب و یا از قرآن منهو بعضی مرجعش عذاب را قرار دادند چه بحث عذاب آخیر نامد اما موضوع اصلی بحث چی بود؟ قرآن بود بعضی مرجع منهو قرآن را قرار دادند. آنها در باره قرآن در شکی هستن مریب یعنی سرگردان در چنان شکی که سرگردانو حیرانان که چی بکنند؟ در آخر الله عز و جل بشارت میده اون مؤمنینی را که ایمان آوردن به قرآن و بر اساس اون ایمانشون عمل صالح انجام دادم من عمل صالحا فلنفسه هر کسی عمل صالح انجام داد این عمل صالح برای خودش است یعنی به نفع خودش است اما و من اون ترغیب این ترهیب است اما کسی که بد عمل کند بسیاری جه اساء به شرک هم تفسیر شده عمل سیع شرک را میگه ها بر علیه خودش چون بیشتر در قرآن کریم خصوص در سوره های مکی اصول بیان میشه بحث گناهانی کوچک نیست بحث توحید و شرک است به این خاطر اعمال یعنی اعمال توحیدی اعمال ایمانی و اصاعه اعمال بد یعنی اعمال کفری و شرک وما ربک بظلام للعبيد رب تو ظلم کننده برای بندگانش نیست این ظلم خالی از مبالغه هست یعنی هیچ ظلمی بر بندگانش هر فر نمی فرماید الیه یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَى وَلَا تَضَعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِ قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا من شَهِيدُ در آيه يبوز وَمَنْ من عمل فَلِ فلنفسه ومن أَسَاءَ فَعَلَيْهَ هر کسی عمل صالح و نیک انجام بده نفعش و سودش را خودش میبرد و هر کسی بد ام انجام بده هم بر علیه خودش هست در آخرت و در قیامت به کیفر اعمالش و به جزای اعمالش می رسد حال سوال میشه که اون قیامت کی هست اون زمان چه زمانی هست چقدر منده تا قیامت خدای تعالی انجا جواب میده الیه يرد علم الساعة علم اون قیامت و زمان اون قیامت فقط پیش خدای عز و جل هست غیر از خدای تعالی هیچ کسی نمیداند. و این علاوه از اینکه که پاسخی اون سوال هست این دلیل عقلی دیگری هم هست که کسی می تونه معبود قرار بگیرد که علم داشته باشد علمش اختصاصی باشد نسبت به همه مسائل آگاهی داشته باشد لذا در اینجا خواص علمی پروردگار هم بیان میشه خاصه اول الیهی رد علم السعه الیهی از کنم که مقدم شده تقدیم ظرف یا تقدیم جار و مجرور مفید حسر است یعنی فقط و فقط به او بر میگردد علم قیامت ما نیمیشه کسی غیر از او علم قیامت را ندارد يسألونک عنی ساعة ای پیان در قیامت از شما می پرسند که ایان مرساها که اون قایم مشه فيما انت من ذکره شما در جایگاه جایگای هستید از اون قیامت و علم قيامت و یاد قيامت يعني شما نمیدونید شما خبر ندارید الى ربك منتهاها وقتی که جبرائیل امین هم خاص آموزش بده که علم قيامت را نفرشت ميداند نن نبی ميداند رسول الله پرسید که متى الساعة در ان حدیث معروف جبرائیل چه جواب دادند؟ مال مسئول عنها بأعلم من السائل همون که شما علم دارید من هم دارم من از شما بیشتر نمی‌دونم یعنی او فقط خدا میدوند لذا علم علم قیامت فقط و فقط به خدا بر اختصاص به پروردیگار دارد. خاصه دوم و ما تخرج من ثمرات من اکمامها خاصیت دوم و ما تحمل من اونها خاصه چارم ولا تَضَعُ الا بِعِلْمِهِ این متعلق به هر ستا هست اِلَّا یعنی هیچ نومیوهی از میوهها، از خوشش، از غلافش خارج نمیشه از از کنم که کم كم یا کمه اکمام جمع کم هست یا کمه هست از اون غلافش خارج نمیشه و ما تحملو من انثا هیچ مؤنسی در شکم خودش حمل نمی کند ولا تزا و وضع حمل نمی کند الا بعلمه مگر بی علم پروردگار همه اینها در علم پروردگار خدا میدوند چه حمل میکند که حمل میکند که اومیوه میرسد و از غلاف بیرومی آید و یوم ینادیهم ببینید از وایوم یُنادیهم زمن اینکه که تخویف اخروی هست این تخویف اخروی هست. بیانگر این مطلب است که زمان قیامت و کی می آید قیامت این خیلی مهم نیست اون چیزی که مهم است اینه که در قیامت چه رخ می‌دهد چه اتفاقاتی میافتد چه سوال و جوابی شود الله می فرمد و یوم ینادیهم روزی که ندا می فرماید خداون مشرکین را در اون روز در روز قیامت این شرکائی کجا هستند شریکان من خدا شریک ندارد اینجا بینیسه به زعم شما چون شما اعتقاد داشتید که من شریک دارم اون شرکائی که به زعم شما به گمان شما شریک من بودند اون شریکان کجا هستند و چه جواب میدن قالو اذننا كما مننا من شهيد اذننا یعنی ما در محضر شما اعلام کردیم ما گفتیم که اذننا اگر ساده و عامیانه ترجمه بکنیم ما گفتیم که ما مننا من شهيد هیچ کس از ما گواه نیست البته من شهيد دو معنی گفتند من شهید اینجا شهادت به معنی دیدن هست به معنی نظاره کردن هست یعنی هیچ کس از ما نمی بیند اینجا ما نمی بینیم شما شریکی داشته باشید پس من شهید متعلق به آخرت هست اینجا ما نمی بینیم و تفسیر صحیح تر و درست تر که من شهید یعنی گواهی مطلب نیستیم مدعی این مطلب نیستیم اگر در دنیا گفتیم اشتباه گفتیم علام ما داریم میگیم به شما پروردگار ما من نام شهید از ما هیچ کسی مدعی و قائل این مطلب نیستیم ما قبول نداریم که شما شریک دارید دا. یعنی اونجا آقیده شون استلام میشه درست میشه ولی دیر شده معنایی؟ اللهم فرماد و ضلّ عنهم ما کانو یادعون من قبل گم میشود ناپدید میشود از آنان از آنان یعنی چه؟ ای عن نصرتیم از یاری آنان ناپدید میشود ما کانو آن معبودانی که کانو یادعون من قبل انهار را فریاد میزنن قبل از در دنیا وظنوا ما لهم من محيس ان ها يقين میکنند خیلی جه حق ذنب یقین است ان ها یقین میکنند اونجا که ما لهم من محیس برای ان هیچ خلاصی نیست محیس یعنی مفر خلاصی رهایی دیگه خلاصی و رهایی برایشون نیست لا يسام الانسان من دعاء الخير اما با وجود این انسان خسته نمیشه از طلب کردن خیر هی hey! میخواد که همش خیر بهش برسه از خواستن خیر خیر منظور ترقی از پیشرفت است و هر روز بهتر از دیروز هست انسان یعنی حریص است این در فطرت انسان است اما بیشتر با توجه به سیاق مراد از این انسان انسان کافر است نصیر در فطرته همه انسان ها هست که هرچی ما مسلمان امین تو هستیم هرچی که خوبی به ما برسه ما نمیگیم بسه میگیم بیشتر باشه علم مزید اما و اما الشر فیئوس قنوت از اینجا معلوم میشه که این انسان منظور انسان کافر و مشرک است اگر به شر برسد اگر بهش مصیبتی برسد برسد فیئوس قنوت از نامید کامل میشه یعوس قلبن قنوت با اعضا و جواره هر دو من نامید هست وقت مایوس هست هم قلبن و قنوت هم ظاهرا کلا نامید میشه از خدایانش نامید میشه مومن نه مومن اگر برایش مشکلی پیش میاد خیلی امیدواره به پروردگارش به معبودش به ربش اما او میدونه که پیش رب هم وقعتی ندارد جایگاهی ندارد پیش خدایانش خدایانش هم کاری براش نمی کنه ناامید محض میشه ناامید کامل میشه ولا ان اذقناه رحمت منا اینجا خدای تعالی در واقع چند تا مرض هستند برای انسان اونها رو گوشزد می فرمد اول اینکه لایس ام امو الانسان من دعاء الخير طلب خیر و ترقی و پیشرفت همیش طالب است هر روز بی روز وضعش بهتر بشه از نظر دنیا دوم اگر کوچکترین مصیبتی بیش برسه فیاوسن قنوت سوم ولا ان اذقنا رحمتا من بعد الضراء اگر ما بچشانی بی اون انسان رحمتی از جانب خودمون بعد از ضرری که او رسیده بعد از مصیبت و آفتی که پیش رسیده من بعد الضراء مسته بعد از مصیبتی که به او رسیده وقتی که خیر براست مثلا دی تا دیروز مریض بود افتاده بود الان صحیح سالم شده تا دیروز ورشکست شده بود الان بالاخره وزش خوبه. اون وقت لیاقولن حاضا لی حتماً حتماً میگه حاضا لی این لام لام استحقاق است یعنی من مستحق همین حالت هستم مستحق. راحتم مستحق سرمایداری از مستحق اینم که وزم خوب بشه و ما اظنه ساعت قائمته این غادر مغرور میشه که بعد قیامت را هم انکار میکنه میگه من فکر نکنم قیامت برپا بشه من گمان نکنم که قیامت قائم بشه بالفرض اگر قیامت قائم بشه هم خانم مشرکی شک داشتن میگفتن اگر قیامتی باشد همونطور که در دنیا وضع ما خوبه اونجا هم حتما پروردگار وضع ما را از بقیه بهتر خواهد کرد ولی این رجعتو الى ربی اگر برگردانده شوم به پیش پروردگارم این لی عنده للحسنه همانا برای من پیش پروردگار حسنا است یعنی برخورد خوب هست و اونجا احسان هست به من لطف میکند به من میدهد یکی از ریاس غلط و غلط فهمین ها اینه که اونها زندگی آخرت را بالفرض میگفتن که باشه به زندگی دنیا مقایسه میگفتن هر کس اینجا وزش خوبه اونجا هم وزش خوبه اینجا وازش بده اونجا در حالی که اینا هر دو قابل مقایسه نیستن اینجا خداونده خدا عزواجل بر اساس یک سری مسالهی احوال بندگان را متفاوت قرار داده اما اونجا نه اونجا بر اساس قانون هست بر اساس ظابطة حس قانون وقانون تي ايمان وعمل صالح لذا الله بي فرمي فلننبئن الذين كفروا انتخوي في اخرا فياس ما حتما حتما خبر مي داين بكسانك كف بما عملوا بانتك عمل کردن نذيقنهم حتما مي تشاني من هارة. از عذاب سخت عذاب بسيار سختي براي انها دار انتظار اس و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نا اب جانبيه بعضهم زجر سرزنش بر انسان کافر انسان مشرک الله می فرمات هر گما انعام میکنیم بر انسان اعرض اراز میکند از شکر بجا که تشکر بکند بجا اینکه گزار باشد پشت میده رویگردانی میکند و نا اب جانبه به یعنی به نفسی هی به ذاتی معنی دوری هست نه یعنی بعده یعنی منظور اینه که خودش را دور می کند خودش را دور می کند همون اعراض هست اعراض می کند و فاصله میگیرد منش معنیش اینه بجای اینکه خود به چونکه انتظار پروردگار از بنده اینه که هر گاهی به بنده لطفی میکند بنده به خدا نزدیکتر بشه بنده سجدش بیشتر بشه تشکرش بیشتر بشه ذکر و یاد حق بیشتر بشه اما انسان غافل و انسان کافر و مشرک برعکس هست خدا بهش لطفی میکند نعمتی بهش میده او مغرورتر میشه او سرکشتر میشه او دورتر میشه از خدا و اضامه سه شر هرگاه به او شر برسد به او مصیبتی برسد فضو دعا این عریض دعایش خیلی عریز و طولانی است داره دعای طولانی است ای خدا ای پروردگار ای رب یعنی انسان البته انجا چون اسیاق معلوم میشه که این آیه درباره انسان کافر هست ولی اصلش اینه که در فطرت انسان همینه الان انسان مشکر باش بیشتر شرک میکنه بیشتر از خدا فاصله میگیره بیشتر سرکشی میکنه اما انسان مسلمان نه مسلمان پای بند بلکه مسلمان غافل مرادم هست هر وقتی که خدا بهش لطف میکنه نعمتی در اونم سرکشه اونم در غفلت خوشی داره جشنی داره سروری داره همیش گناه همیش معصیت همیش پایکوبی و رقص اما برایش مشکل پیش میاد صفح اول مسجد. وقتی که مشکلش حل میشه دیگه فراموش میکنه این در فطرته خیلی از افراد هستن که سر کارشون به زندان میفته روزها کلن روزها هستن شبها کلن بیدار عبادت میکنه یکی میگفت میگفت که من چار ماه ماه زندان بودم گفته یک شب نخواه شب تا صبح عبادت میکردم و این چارما ماه کلن روزه بودم ولی آیا اینجا که آمده به نظرش و همون حالت را داره اگر به مسجد بید هم خوبه این این فطرت انسان است گرسی اینجا اشاره به انسان کافر هست ولی مسلمان هم نباید وقتی که خدا بهش لطف می کند حالت خوشی دارد نباید این مسلمان قافل بشه نباید از خدا دور بشه فقط وقتی که مسیبتی میآید ما دعایمون طولانی بشه چرا وقتی خوشی دعایمون طولانی نیست چرا اون زمان تشکر و سجده ما طولانی نمیشه انتظار پروردگار از این آیات معلوم میشه انتظار رب از بندش اینه که هر وقتی که خدا من لطفی به بندش میکنه هم بنده سجده, سجده شکرش طولانی بشه تشکرش طولانی بشه و نه اینکه فقط به وقت مشکل حالا این داشته باشید الله می فرماید این سرزنشه این به نوع گلائه هر وقت ما این عام کنی بر بنده اعرضه ای اعرضه عنی شکر اعراض میکند و دو به جانبه و دور میشه بذاته به فاصله میگیره اما و اذا مسه الشرر هرگر بیش شر می رسد مصیبتی می رسد اینجا نوشته مثل فرعون فرعون وقتی که به ببلا گرفتار شد غرق شد الان آمن تو بلذی آمن بهی بنو اسرائیل به اون پروردگاری که بنی اسرائیل ایمان آورده منم ایمان آورده فضو دعاین عریض دعای عریضی داره دعای طولانی داره لذا در پایان سوره بعد از اینکه خداوند غفلت و ناسپاسی و نشاکری انسانها بیان کرد خطاب ناسحانه می فرماید خلاصه این خطاب اینه که ای مشرکان اگر شما برای ذرهی برای ای، تصور بکنید که واقعا این پیغمبر فرستاده خدا باشد از طرف خدا مبعوث شده از طرف خدا ماموریت داده شده و شما هم دارید باش مبارزه میکنید دارید مخالفتش میکنید از شما که کی تونه باشه ای این فکر نکردید که واقعا اگر این بنده محبوب و بنده فرستاده خدا است ما داریم چیکار میکنیم می باش لذا این خطاب خطابی هست که دعوت میده به تفکر قل ارائیتم کان من عند الله به آنان بگو خبر بدهید اگر این پیامبر از جانب الله باشد ثم کفرتم ثم کفرتم بهی سپس شما کفر بکنید به آن بعضی گفتن جواب محظوفه افلایت يض... يضركم اي ان كفر الشماء بلا شما ضرر نيست من اضل من من هو في شقاق بعيد چكسي گمر خاطر از اون انساني كي انسان در شقاق و در اناد و در مخالفت بيدرس حق شقاق يعني اناد و مخالفت بعيد بعيد عن الحق يعني خيلي از حقي فاصله داري چون با محبوب و پيامبر خدا داري مخالفت ميكنين و خداوند باز هم تخویف میده می فرماید که آیات ما را ان قریب می بینند ما به بی آنها نشان میدهیم با چشمان خودشون می بینند چی را می بینند سنریهم آیاتنا في الافاق وفي انفسهم ان قریب ما نشان میدهیم به آنها آیات خودمون را ببینید این سوره در مکه مکرمه نازل شده این آیه داره پیشگویی میکنه در باره آینده مکه در مکه در خود مکه مسلمانان جای نداشتند اما اینجا پیشگویی میشه که انقریب در افاق در اطراف آیات ما ظاهر میشه یعنی همه جا فتح میشه منشینه همه بلاد به اسلام میگروند مسلمان میشوند آیا این محقق شد یا نه پیشگویی این نمیتونه دلیل دیگری داشته باشه بجز از معجزه قرآن و حقانیت قرآن و حقانیت اسلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه این گفته میشه اگر امروز گفته بشه امروز ما دیدیم خاندیم تو تاریخ اسلام تمام دنیا رو اما این در زمانی هست که مسلمانان به غیر از دار ارقم که اونجا پناهنده هستند و دارا مشوره میکنند فکر میکنند کجا پناه ببریم جای نیست مشوره میشه بریم حبشه افریقا ما ها باید راه برویم اونجا پناه ببریم که ما راضیت اذیت نکنند دس جینی شرایط خداون میفرمايت سنوريهم آیاتنا فی الافاق ان قریب ما نشام دیدیم من رو در افاق در اطراف مراد از آیاتنا فی الافاق چیه فتوحات اطراف عرب است بنویسید یعنی فتوحات اطراف عرب اطراف مکه و بلاد حجاز همه جا آیات خودمون را نشون میدیم می. یعنی همه گرویده اسلام میشن. و فی انفسهم در وجود خودشون هم آیات خودمون را نشون میدیم در وجود خودشون فتح بدر از فتح مکه هست و شکست اونها در بدر است بالاخره بعد از مدتی در بدر شکست خوردند در بدر کشته شدند در بدر عزیز شدند همین که بزرگتری مخالفان بودند حتی یتبین لهم انه الحق حتی که ظاهر میشه برای انها مثل روز روشن که انه الحق این حق انه زمیر بعضی گفتم به سوی قرآن حکم نامه این کتاب کتابه حق است اولم یکفی بر ربک على علیه كل شئ شهید، اندلیل دیگری هست، دلیل عقیلی هست. خداوند میفرماید آیا کافی نیست، بر یعنی درباره پروردگارت که آنهو على كل شيء شهید، اینکه خداوند بر هر چیز حاضر و ناظر است. هر جا حاضر مطابق با شأنش است همین برای توحید پروردگر کافی نیست یعنی بقیه خدایان بقیه معبودان باطله اونها هیچ خبری از اطراف خودشون ندارند خداوند بر هر چیز حاضر همین دلیل خودش کافی نیست این دلیل عقلی چهارم است البته این اولم یک فی ربک دو تا ترکیب داره بر اساس دو تا ترکیب دو تا تفسیر هم داره أفضل إنك بابا زائده هست، وربك فاعل ومبدل منه هست. هس أو مبدل منه هست وأنه على كل شيء شهيد بدلاً. يعني أولم يكفي آية كافية ليست في از این جهت که انهو على کلشه این شهید بر هر چیز حاضر است گواه است ناظر اعمال است برای توحید پروردگار همین کافی نیست کی, کی، چه کسی غیر از خدا این صفت را دارد اینجا در تخانه تاریک نشستی اینجا خدا تو را میبیند بر اعمال تو ناظر است بقیه این را ندارند. همین برای توحید پروردگار کافی است بعضی می گویند که باب معنی فی هست ترکیب دوم را میکنم و اینجا مضاف مقدر اولم یکفی رب بکا ای اولم یکفی فی توحید ربکه. بکا ایدر توحید, رب ای توحید رب کافی نیست که انهو علی کل شیء شه شهید او بر هر چیز حاضر و گواه هست حاضر و ناظر است. این دلائل هست ولی مشرکین هنوز شک دارن الا انه هم فی مریتی من لقاء رب آگاه باش خبردار همانا این مشرکان در شک هستند از ملاقات ربشان الا انه هم شيء کلی محیط خبردار خداون نسبت به هر چیزی احاطه کننده است یعنی همه چیز را در دنیا تحت احاط دارد به وقت عذابشون میده خب این سوره مبارکه حمیم از بود که خاندیم به لطف پروردگار در این سوره همونطور که دیروز خاندیم شبهات مشرکین درباره توحید فی الدعاء پاسخ داده شده که اگر گاهی می بینید کسی در خواب یا در بیداری میآید و شما را ترغیب و تشویق میکنه به سوی فریاد فریاد غیر الله و کم خواستن از غیر الله اونها در واقع شیاطین هستند که می‌خواهند شما گمراه بشید شما با اینها فریب نخورید اینها دلیل نیستند دلیل اصلی چی میتونه باشه آیات پروردگاه